بسم الله الرحمن الرحیم، دوره ترویجی اصول قانونگذاری با رویکرد تمدنی در افق جمهوری اسلامی ایران. پنجشنبه چهارم اسفند ماه 1401. بفرق. اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك و انخر این که هو الابتر صدق الله العلي العظيم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> با عرض سلام و و احترام خدمتی اصدی دارت من حسب اجازه اصدر در خدمت بزرگواران و عزیزان هستیم با یکی دیگر از بحث ها و کرسی های علمی ترویجی با عنوان اصول قانونگذاری با رویکرد تمدنی در افق جمهوری اسلامی ایران که این برنامه با همکاری گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مؤسسه آموزش عالی حزب ایممان‌الله علی سلام و مرکز پژوهش تمدن اسلامی پیامبر عزم صلی الله علیه و سلم در راستای <تصفح> همایش مجلس تراجن قلب اسلامی داره برگزار میشه <تصفح> از اساتید عزیز در وقت جناب حجت الاسلام و المستوین آقای دکتر حجت الله فتحی که استادگیار پجویشگاه فرهنگ و اندیشه هستند تشکر میکنم که قبول زحمت کردن جهت ممنونم جهت نقد موضوع و مسئله از ارائه‌دهنده محترم جناب آقای دکتر حامید کهفند قبول زحمت کردن، طرح موضوع شد و موضوع رو ارائه قراره بکنند که عضو هیئت علمی پژوهشکاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام هستم. اگر از عزیز بوده و اجازه بدن یک مقدمه مختصری موضوعی کنم و موضوع در خدمتتون بخواهم. سر بودت تذر هستن که انقلاب سومی بموانی یک پدیدهی که در حال تطور هستش و برای خودش بفقها و چشماندازهایی را رو کرده و با گفتمان حاکمیت دین بر ارساهای فردی، سیاسی و اجتماعی پا بر عرصه حکمرانی در جهان قرار داده در همین راستان معام وزن رهبری در سال 79 فرایندی رو برای انقلاب اسلامی تفصیم میکنن که تحت عنوان فرایند تخت و احتاف انقلاب اسلامی تحت میشه این فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی پنج مرحله داره در بیان معظم الله که اشاره داره به که ما حریکتمون در بحث انقلاب اسلامی این نبود که انقلابی بکنیم شاه برود و ما بیایم نه این نبود و شروع کردن الگوی کلان انقلاب اسلامی و ها و آینده این رو به تفصیل و اشاره دارند که مرحله اول همون فرآیند انقلاب بود که در سال 59 اتفاق افتاد مرحله دوم نظام اسلامی بود که در سال 58 به تصفیه قانون اساسی فقط شد و مرحله سوم دولت اسلامی و در انتها بحث و در ادامه بحث جامعه اسلامی و در نهایت این باید این حرکت خط به یک الگوی تمدنی بشه و منجر به تحقق تمدن نوین اسلامی بشه به همین منظور باید تمامی رویکردها و اهداف و فعالیتهایی که در جمهوری اسلامی ایران در حال تحقق هسته در حال شکریه هسته یک رویکرد فرایندی به خودش به عبارتی ببینه و در نهایت بتونه خودش رو در اون الگوی کلان تمدنی جایابی کنه و نقش خودش رو مشخص کنه به همین مذورد داشتن این نگاه کلان و این روی کرده کلان چه در تمامی عرصه‌ها و مخصوصا قانونگذاری قانونگذاری میتونه موثر باشه و ما رو سریعتر به مقصد و مطلوب بذاریم. هدف از این بحثم ارائه ایده قانونگذاری در پارادایم حقوق اسلامی به عنوان تصویری از قانونگذاری در رویکرد تمدن نوین اسلامی هستش که در خدمت سروران هرزمند هستیم. و سوال اصلی تحقیقمون این هستش که خب ما در صدرنی هستیم تو این فرایند تمدنی یک قاعده هایی رو به دنبالش هستیم که می‌خوایم به قانون تبدیل شیم، قانون تبدیل کنیم تا بتونیم این ظرفیت قانونی رو، با این ظرفیت قانونی، حرکت‌های اجتماعی مردمی و حاکمیتی خودمون رو جهده‌ای کنیم به سمت رسیدن به این اهداف. خب یه چندیتو مسئله مطرح میشه. یکی از مسائل اصلی که هم مدنمی که چرا این قاعده باید تبدیل به قانون می شود. یعنی ملاکه این, این قاعده انتخاب می شود چه مسئلی می توانه باکه و چرا باید قولویت قرار بگیره و به چه دلیلی مجاد به تصویب این قاعدهی که نظر هستش هستیم. من برخواست می کنم به طبی کلمه که بیشتر از این اثر از من جنابای دکتر کهفن زحمت که زحمت کردن که ارایه بحث داشته باشن اگه صلاح باشه فکر کنم 23 اگه ما خدمتون باشیم. <تصفح> اگه در باشیم حتماً بسیار اگه در یا من بحثو جلو ببرم الان چون این زو جمع میشه مدیریت رو خودشون در اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم محمد و آله محمد ارز سلام و ادب و احترام خدمت عزای بزرگوار اساتید خودم و تبریک ایام و موالید ماه معظم شعبان خصوصا میلاد آقا سید که در می میلاد بزرگ هستیم انشاءالله که به برکت این موالید انشاءالله جلسه ما جان ما جامعه ما نورانی بشه و مطلبی که اینجا عرض میکنیم وقتی که از دوستان میگیریم انشاءالله ضایع نشه موضوعی رو که دوستان انتخاب کردن برای این جلسه بحث قانون‌گذاری تمدنی در افق جمهوری اسلامی خب انایت دارید و مستقر هستید که یک بحث زوابعاد و جزء مطالعات میان رشته‌ای که از یک طرف ما باید مباحث تمدن نوین اسلامی خصوصا مباحثی رو که حضرت آقا رهبر انقلاب تبیین کردن رو مرد مطالعه قرار بدیم و از سوی دیگر خدمت شما ارز کنم موضوعاتی که در حوزه قانونگزاری و حالا اون سطح تحلیلی که ما میخوایم ارائه بدیم در حوزه فلسفه قانونگذاری بعد مورد توجه قرار بگیره و از تعامل این دوتا حوزه ببینیم میتونیم ای رو خلق کنیم و البته یه زل سببو میام که این بحث بهش اشاره میکنه بحث <تصفيق> پارادایم های علوم اجتماعی که از اون فضا عکس میشه و در این بحث مورد استفاده قرار می من گزاره اصلی که از مباحث تمدنی میخوام اینجا مبنای بحث خودم قرار بدم اینه که تحقق تمدن نوین اسلامی آرمان نظام جمهوری اسلامی است این جمله جمله معروف و شناخته شده ایه. یعنی ما در همین فراهندی که فرمایش کردن فرایند پنجگانه از ابتدا تا جامعه سازی و تمدن سازی باید این آرمان مدنظر نظام باشه و نکته بعدی این که برای تحقق تمدن اسلامی همه اجزاء نظام اسلامی و جامعه اسلامی و دولت اسلامی باید نقش آفرین باشن و نقش خودشون رو شناسایی کنن به دقت و بر اساس اون عمل بکنن که نظام قانون گذاری از این قاعده مستثنا نیست و چه بسا نقش بسیار کلیدی در این امر داره و باید نقش آفرینی بکنه. اینجا محل اتصال مواز تمدنی ماست به حوزه قانونگزاری در حوزه قانونگزاری نظام قانونگزاری ما و قانون‌گذار ما باید فهم درست و خانش درستی از قانونگزاری تمدنی داشته باشه که بر اساس اون بتونه نقش آفرینی کنه. من برای اینکه حالا باز به با اون ایدم نزدیک بشم لازمه که یک مقدار هم به پیشینه اشاره بکنم خب ما با یک پدیده اجتماعی به عنوان جریان مدرنیته حداقل 200 سال تو قانونگذاری مواجه هستیم در کشورمون و در جوامع اسلامی و بزرگان ما و صاحبان اندیشه تو این زمینه ایده های جدی مطرح کردن شما ببینید وقتی که این جریان به ترجمه در کشورهای اسلامی مبادرت میکنه و ارز میکنم چه سیری تیشد در دولت حاکمیت عثمانی ما با قانون مجلت والا احکام مواجه میشیم که دقدقه داره قانون مبتنی بر شریعت رو در مقابل قانون مدرن وضع کنه و در جامعه اسلام پیاده بکنه در مصر قانون مدنی مصر رو میبینید در ایران قانون مدنی خودمون رو میبینید که بیشترین انتباه و بیشترین مناسبت رو با شریعت و فقه داره خب این جریانیه که تو کشور اسلامی تو این زمینه شک گرفت در اندیشمندان مسلمان خصوصا تو کشور ما که بعد از مشروط این جریان ست ساله رو باید رسد بکنیم ایده های متعددی تو این زمینه داشتن از مرحوم میرزای نائینی گرفته تا خدمت شما عرض کنم علامه توا شهید صد حضرت امام ایده های مختلفی حتی مرحوم شهید شهید مشروطه کی بودن؟ شیخ فضلالله ده ده ده ده. نوری بله. از ایده تشریح تا تطبیق تا بحث مالانصفی تا بحث منطقه تلقه که مرحوم صد میفرمایند تا نظریه ثابت متغیری که علامه فرمایش میکنن این تئوریا هست تا ما بلاخره می میبینیم که اینها در نظام قانون گذاری خودشو نشون میده یعنی اصل دوم قانون اساسی مشروط اساسی مشروطه بحث شورای مجتهدین رو مسبب میکنه و اونجا قانونی بعد وضع بشه که مخالفت با اسلام نداشته باشه و این شورا بعد از فیلتر این شورا بگذره یا در قانون ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینید که اصل بسیار مترقی چهارم قانون اساسی رو ما داریم که با یک نگاه دقیق و حالا تو ادبیات ما ادبیات پارادایم اسلامی میبینید که ایده انطباق رو مطرح کنه یعنی قوانین در ابعاد مختلف کیفری خدمت شما حضراتكم مدنی تو اوزاهای مختلف باید با نسبت به اسلامی اصل انطباق رو رعایت بکنن و حالا این جریاناتیه که ما بینیم تو این پیشینه. مخوام برسن به اون م... مسئله و محل مشکل. ببینید همچنان که این جریان ها مقاومت میکنن و ایده هایی رو میدن در مقابل این حیمنه مدرنیته و قانونگذاری مدرن. این نکات مثبت رو میبینید. در مقابل شما ببینید که ما دورانی رو داشتیم که یک مجموعه کامل حقوقی. یعنی شما قانون تجارت ما، قانون مسئولیت مدنی ما، قوانین کیفری ما شکلی و شکلی و محتوایی. می‌بینید کاملاً به صورت یک جا از فرانسه، از سوئیس، از جای دیگه وام گرفته میشه و میاد اینجا ترجمه میشه. حالا با چه منطقه تئوریک پشتش قابل توضیح و اینکه اصلا اون فضای اجتماعی با این فضای اجتماعی چه مناسبت ده بلاخره این اتفاق بفته و اینا مشکلات ما بوده در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب ما این مشکلات خیلی کمتر شده اما باز هم ما تا رسیدن به یک قانونگذاری تمدنی تا رسیدن به یک قانونگذاری در پارادایم اسلامی راه داریم یعنی اگرچه ما الان شاید اگرم اتفاق میفته خیلیش شجاعت این وجود نداره که به سراحت بگن آقا این قانون رو من رفتم از فرانسه ها بردم ولی قانونگذار ما استاد حقوق ما کارچناس که میخواد قانون بز کنه آیا این همچنان در اون پارادایم فکری که قانونگذاری قبل داره تقنین میکنه فکر میکنه یا نمیکنه اگر تو اون فضا فکر میکنه باز ما مشکلاتی داریم که باید بهش توجه بکنیم که ما حالا تو این جلسه میخوایم یه مقداری به این وضعیت ورود بکنیم یعنی من مسئله اینجور تقریب کنم ما دیگه اون وامگیری خیلی فاشه که در گذشته داشتیم و نداریم ولی قانونگذار ما آیا اون دستگاه محاسباتیش تطبیق میکنه و اون نگرش اسلامی با واقعیت اجتماعی که میخواد براش قانونگذاری بکنه یا نه این سوال اصلی که حالا من یه نکته دیگه هم می کنمم در مورد اون حیمنه قانونگذاری مدرم و اینکه اون فرندی چطوری اتفاق افتاد پس یه دوره ای بود که اینا قوانین رو کاملا ترجمه میشه تو کشورها اجرا میشه. یه زمانی اگر مثلا تو بعد انقل انقلاب های در کشور دیگه که استقلارتون تعمیم میشه می بینید که، اگر نمیشه قانون رو کامل بیارن ترجمه کنن، سعی بر اینه که این کنواسینای بین المللی به شدت ترویج بشه و به شدت الزامی ایجاد بشه نسبت به اونها. خب ببینیم اینا ابزارهای حکرانی. اگر ما میخوایم قانون گذاری تمدونی رو فهم کنیم به نظرم یکی از مطالعات موردیش همین نوع بهرگیری قرب از کنوانسیون های بین المللی چگونه برداشت خودش رو از واقعیت اجتماعی تبدیل به قانون کرده و این قانون رو چگونه براش الزام بین المللی درست کرده که کشورهای مختلف ملزم بشن به این ملحق بشن و حالا اینو بیارن در قوانین خودشون پیاده کنن ببینید این یه بحث جدید شد حالا من یک چون میخوام خیلی هم بحثم رو نشه بند خدمت شما ارز کنم الف ماده دو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حالا من تو این بحثم که ارامی دم یه مقداری میخوام تو قوانین خانواده ورود کنم اینچون خود... خودم رشنم خصوصیه شاید خیلی نزدیک نشین به قوانین کیفر اینا ولی تو حوزه مطالعات زنان و خانواده و اینها این مقرر رو ببینید که این کنوانسیون معروفه رفت تبزه زنان چی میگه؟ میگه کشورهایی که ملحق شدن به این کنوانسیون موظفن که چیکار کنن گنجاندن اصل تصاوی میان زنان و مردان در قانون اساسی یعنی خیلی جالبه. یعنی اگر کشوری رفت این کنوانسیون پذیرو قانون اساسیش رو رفته از اون گرفته یا سایر قوانین مربوطه هر کشور ببینید چه الزامی رو درست کرده بعدن بر اساس این میاد شاخص ارزابی کشورها رو میذاره بعدن متهم میکنه بعدن جو... این یک نه حکرانی تبدانیه دیگه ما اگر میخوایم قانون گذاری تمدن کنیم این یکی از کیس های کیس استادیه که بعد مورد مطالعه قرار بدیم که ما چگونه میخوایم جغرافی های وسیع جامعه اسلامی ها و حالا با اون نگاه انشالله آرمانی که داریم یک ایده است که میشه جهانی بشه ما چگونه باید به با اون سمت سیر بکنیم خب پس این حالا از بحث پیشینه نوع مواجهه ما با این مسئله از زوایه مختلف میشه ما این بحث سیاسی بحث بکنیم نمیدن حقوقی بحث بکنیم از من اون منظری رو که عقص کردم بیشتر تو نگاه فلسفه حقوقیه که حالا رساله تو این زمینه نوشتیم چند تا هم مقاله تو این زمینه بود. بحث رو یه مقداری از این منظر میخوایم ورود بکنیم و پیشوردم اونم اینه که قانونگذار ما اگر به تفکر فلسفی احتمام داشته باشه ما به سمت قوانین سازگار منقع و موثر پیش خواهیم رفت اینا صرفا یک بحثای انتظایی نیستش و ورود به این مسئله هم از من... تو این جلسه از منظر ادبیات نظری پارادایم‌های علوم اجتماعی ما در مباحث فلسفه حقوق که وارد میشیم یک دوگانه بسیار هیمنه‌داری به اسم حقوق پوزیتیویستی و حقوق طبیعی داریم که بحث‌های میره زیر اون تفسیر میشه تمام رویکردهای پارادایمی فلسفه حقوق رو شاید بعضیا بگن این مثلا پوزیتیویستی یعنی حتی مگه اون که داره تفسیری حقوق طبیعی میکنه اون که داره رویکرد انتقادی داره چون مؤلفه‌های مشترکی دارن خیلی دقیق فعلا ما ترجمه نشده تو کشور ما این بحثا حالا برداشت من اینه حالا ممکنه کسانی دقیق ترین بحثا رو مطالعه کرده باشن لذا اگر ما تو موازی مطالعه روی کردای مختلف حقوقی مقدار دقت کنیم و از اون دانش هم داشته که تو موازی مطالعه اجتماعی هست استفاده بکنیم شاید مقدار به دقت بحث بیشتر شد. خب ما تو های پارادایم پارادایمی که مطرح تو علوم اجتماعی 8 سؤال سوال مهم مطرح میشه یا هر پارادایمی به این 8 سوال آن که پاسخ میده یک چارچوب ذهنی در اختیار اون محقق قرار میگیره حالا به طبعش تو بحث ما در اختیار اون قانون قانونگذار قرار گیره که می‌خواد بر اساس اون کنش اجتماعی انجام بده ما با این هشت همش کاری نداریم این هشت تا سوال حالا من اگر خیلی تیتبار عرض بکنم میگه که آقا آقا محققی که میخواید پدیده اجتماعی رو شناسایی کنی هدفت از خرجش در علوم اجتماعی چیه ببینید قانون‌گذاری ما ما این با اینم به عنوان پیشورد بپذیریم که قانون‌گذار ما نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت اجتماعی قانون‌گذاری کنه یعنی گذاری یه موقعی که اگر بخوایم یکی از مایزهای وجه تمایزش رو با فرایند فهم مثلا اجتهادی بخوایم بحث بکنیم شاید مثلا تو روش اجتهادی بحثیم باشه که آها ما ادله محوریم ما خیلی کاری به واقعیت اجتماعی نداریم ما بعد مراجعه کنیم ببینیم با مبتنی بر اون ادله ای که داریم به چه حکمی برسیم خیلی ما بکنیم. ولی قانون گذار میخواد برای جامعه وضع الزام بکنه ناگزیری که واقعیت اجتماعی رو خوب بشناسه و این شناخ تاثیر داره اینو همه پیش ما این شناخ نوع شناختی شما از این پدیده اجتماعی اگر شما خانواده رو تو پارادایم تفسیری بفهمی قانون گذاریت هم به سمت اگر تو پارادایم اثباتی فهمی به سمت اگر تو پارادایم اسلامی فهمش بکنیم میشه سیاست های کلی خانواده ابلاغی از طرف واقعیت اجتماعی اینجا چونه واقعیت سلام من ی فارسی دارم که الان که مشکلات ماست و در رهن ماست بحث مثلا تقویمین در حوزه ایجاب و عدم پوششی مثلا سر و ماست واقعیت اجتماعی اگه بخوام توایر بکنیم یه مسیر رو باید در نظر بگیریم اگر چارچوب شرع و ارزش‌های دینی و رو بخوام در نظر بگیریم با یه مسیر دینی رو تو این بحث من آره واقعیت اجتماعی شما مثلا میتونید تو این مثالی که زدید بگید مثلا نوع پوشش نوع پوشش به عنوان یک واقعیت اجتماعی اینو چهجوری تو چه ساعتی میخواهید تحلیل با چه روی کردی میخواهید فهمش کنی مثلا شما تو دستگاه پوزیتیویستی رو فهم کنی تو دستگاه تفسیری فهمش کنی تو دستگاه اسلامی فهمش کنی تو دستگاه اسلامی چگونه فهمش کنید که بعد میخواد براش مقرره بذاریم من الان دقیقی اصلیم این نوع فهمه است که بعدا قانونگزار بر اساس این ببینید این که من میگم دوچار نوسان هستیم دوچار بی هستیم تو قانونگزاری یعنی شما قانونگزاری سی سالی ما تو بوضع قوانین خانواده رو نگاه کنیم واقعا یک سیری هستش که انسان فکر میکنه خیلی منطقی پشتش حاکم نیست یعنی شما تو یه دوره میبینید که قوانینی وضع میشه که مثلا نرخ جمعیت که در بالاترین جایگاه خودش هست رو به شدت تنزل میده یعنی طوری که به شما جامعه جهانی جایزه هم داده بعد الان ما فضای قرار گرفتیم که مجبوریم مثلا قوانینی وضع کنیم که تشویقی باشه بفرامونشه خب ما باید ببینیم اون نگاه مطلوبی که به هر سه خانواده به هر سه فرزند آوری، اون من به نظر میشه قانونگذار اون نگاه مفروبه رو نداشته. می‌کنی؟ چنان چنانچه مثلا قانون حمایت از خانواده ما آخرین قانون سال 91 که که حالا من اگر فرصت بشه ایراداتیش این نسبت بهش عرض میکنن. ما سیاست کلان خانواده اون سال 95 ابلاغ شده. یعنی این که خیلی روشنه دیگه. گذاری مبتنی بر اون سیاست اتفاق نیافتاده. <تصفح> این حالا اون نوع نگاه مطلوب ماست شما الان بشینید با اصلادیت خیلی از اساتید صحبت کنید اصلا این نوع نگاه به خانواده رو بر نمیتابه این نوع نگاه به گذاری رو بر نمیتابه میگه که آقا اصلا گذاری اصلا نظام حقوقی خودش یک ساخت اجتماعی خب این تو نگاه تحلیل پاردام تفسیری باید فهمش کنید این میگه که آقا اصلا، قانون‌گذاری شما هیچ روی رویکرد کمال‌گرایی نمد داشته باشه خب من الان بعد اون جریانات رقیب ما تو این مقدار این روشن میکنم یعنی اینکه قانون بعد تنظیمگر و تو... یه توصیفی از وضعیت موجود واقعیت اجتماعی قانون‌گذار داشته باشه تنظیمگر این باشه الان شما وارد جامعه می‌شین میگه آه خب خانواده یعنی چی مثلا بله یه خانواده سنتی داریم یه خانواده مدرن داریم. این خانواده مدر ممکنه که تک همسری باشه ممکنه چند همسری باشه ممکنه که خب میگه این آقا واقعیتی که وجود داره شما اینه تنظیمش کن این اون اینجوری اینجور حرفی زنه استاد دانشگاهی این که خودش متوجه نیست که تو چه پارادایی داره صحبت میکنه میگه آقا به عنوان مثلا وضع قانون دموکراتیک میاد میگه که آقا اصلا کمالگرا قانون اسلامی قانون گذاری مد نظر قانون اسلامی شد در صورتی که شما تو نظام قانون گذاری اسلامی اصلا یکی از اهداف دامینه شما ملزمه به هدایتی یعنی قانون گذاری حالا من عرض میکنم قانون گذاری زید سنت های الهی تعریف میشه اگر سنت الهی ما بر هدایت چرا قانون گذار ما این سمت داره ما وقتی بحث تمدنی میکنیم اصلا این بحث اینه که این فراینده طی بشه ما با کمالی برسیم پس این نوع صحبت که میشه ناشی از یک پشتبانه معقبی فکری خاصی که هست حالا تو این هشت سوال مهمی که پارادایی های علوم اجتماعی بهش پاسخ میدن و قانون بزاره ما هم ناچاره که در فهم واقعیت اجتماعی بهش توجه کنه یکی از مهمترین مسائلش این که اینکه اصلا واقعیت اجتماعی تو چی میدونی؟ چه برداشتی از واقعیت اجتماعی داری؟ خب <تص> این سوال اگر از پوزیتیویستا بپرسی اثباتگراه ها ببینید یه نکته دیگه هم من بدرز کنم همینطور که گفتم پارادایی اثباتگراه تعریف دقیقی ازش وجود نداره تو کشور ما و همه روی کردهای جدید رو ممکنه ببرن زید اون اینجا به این مقداری باید دقت می‌کنیم که من دارم از اون ادبیات فلسفی و علوم اجتماعی استفاده می‌کنم. وقتی می اثباتی یعنی پاردامی که واقعیت اجتماعی رو هم میخواد مانند یک شیء فیزیکی فهم بکنه یعنی همینطور که شما میخواید مثلا یک پدیده فیزیکی رو ببرید تو آزمایشگاه و فهمش بکنی این هم میخواد بیاد بگه آقا الان این مثلا نهنجاریه در حوزه پوشش رو اینا ها شما عنوان یک واقعیت فیزیکی تحلیلش بکن علت یابیش بکن علتیابیش بکن و خدمت شما تبیینش بکن و در حد در سطح تجربه هم اینو بحث میکنه یعنی اینکه یک واقعیتی که نه ذات جدی داره نه قایت جدی داره همین که ما فهمش میکنیم در حد ظاهری شما بر اساس این بیاد و خدمت شما ارز کنم واقعیت اجتماعی رو این گونه بفهم خدمت شما عرض حالا اگر ما بخوایم به صورت تفسیری با واقعیت اجتماعی مواجهه بکنیم این جریان تفسیری چگونه میفهمند یعنی مطالعات تفسیری در حقوق بیشتر جریانهایی که حالا ما میبینیم تو نگاهی آلمانی بیشتر شاید جریان داشته باشه <تصفيق> اینا اینا رو می مطرح می کنن که آقا واقعیت اجتماعی یه شی نیست شما تقلیلش نده بشه اینا بیشتر ذهنگران یعنی هر چقدر اونها اینا اینها بیان واقعیت اجتماعی و واقعیت بینال ازهانیه شما برو تو جمع نوجوانان مثلا دعی هشتادی بشین کشف کن این معنا کن ببین اصلا این چه نگاهی به پوشش داره شما نیاز نیست از بیرون یه سری چیزایی رو ثابت فرض بکنی و بعد برای این قانون وضع بکنی شما برو بالا شهر تهران میبینی که برداشت ذهنیشون از پدیده پوشش یه جور پایین شهر تهران یه جور دیگه است. شما مطالعات کیفی انجام بده تو بفهمی که آقا تو ذهن اینا چی میگذره بر اساس اون کامنسنس و اون عقل عرفی و اون شعور عرفی تو این فضا یعنی به شدت میره تو این فضای نسبیت گرایی و اینکه خب قانون در نقشش باز همین‌کاش وضع موجوده و خیلی در تعالی نداره در تغییر نداره که حالا تو پارادایم انتقادی عرض می‌کنید که اونجا محور محور نگاه‌های تغییر و عدم خدمت شما عرض کردم رضایت به وضع موجوده پس اصل حرف اینا ای واقعیت ای مثل پدیدهای فیزیکی نیست که لایه معنایی نداشته باشد و مانند پدیدهای طب... طبیعی بتوان اینها رو مورد مطالعه قرار داد حالا یه مثال تو توضیح خودکشی مثلا علت مشکلی مانند خودکشی صرفا به عمل کرده افراد بر نمیگردد بلکه به وجود واقعیت های اجتماعی که اینها رو از معنا... به صورت معناکاوی میارن مثلا میگن او ضعف اخلاقی و معنوی کاسته شده و این خودکشی اتفاق میفته حالا اینا روی های تفسیری که ما فعلا نمیخوایم اصلا کلا رد کنیم یا اثبات کنیم داریم یه توضیح میدیم که آقا قانون قانونگزار ما یا استاد حقوق ما بر میگرده میگه آقا نظام حقوقی کلش ساخت اجتماعی یعنی که آقا این یک واقعیتیه که در باید به صورت مکرر از معناقاوی در ذهن افراد جامعه در بیاد بیرون و فهم بشه یک واقعیت اینی نداره و کاملا بینال ازهانی روی کرده دیگر یا پارادایم دیگری که خیلی معروفه تو مطالعات علوم اشتماعی روی کرده انتقادیه که حالا تو مطالعات انتقادی حقوق هم میشه این رو جریانش رو پیگیری کرد اینها به شدت منتقده جریان پوزیتیویسته و تا حدودی هم نسبت تفسیری ها روی کرده انتقادی داره. اما اصل حرفشون اینه که فراتر از چیزهایی که در بیرون مشاهده می شود مانند همین نهاد قانونگذاری نهاد خانواده لایه ها و ساخت های زیرین و واقعی وجود داره اصلا مارکسیسم میگه چیه میگه طبقه اینو باید فهم کنی اینو باید کشف کنی بدونی که این نهادهای اجتماعی زیلین دارن شکل میگیرن الان مثلا شما نظام سرمایه‌داری رو باید توجه بهش بکنی این نظام سرمایه‌داریه که داره قوانین رو تو اون دستگاه وز میکنه و تحمیل میکنه باید میکنی. این بیشتر توجهش رو به این بحث میده مثلا میگه ها می شالوده جامعه اقتصاد است. تمامی تحولاتی که در عرصه فرنگ و سیاست اتفاق است. بنابراین واقعیتش بنابراین شناخت واقعیت اجتماعی در این رویکرد در پرتو کشف این ساختای زیرینه یعنی شما نمیتونی بگین آقا من مطالعات اجتماعی نمی کنم من پیشینه این جامعه رو در نظر نمیگیرم من اون های پرقدرتی که مثلا حالا جری... مثلا نوع نگاه زن تو بحث جریان فمینیستی دقت میکنید حالا این بحث کارگر طبقه فلان اینها اینها هستن که دارن نهادها رو شک میدن و باید قوانین و قووا زیل اونها ها فهم میشه. <تصفيق> حالا ما میخوایم چه چرت کنیم. ما میخوایم ع کنیم آیه اساتید ما تو حوزه مطالعه واقعیت اجتماعی دقت کنن که تو حوزه کدوم پارااد ما داریم بازی میکنیم یعنی قانون گذار ما اون استاد ما که به عنوان کارشناس انتخاب میشه که میخواد وضع قانون بکنه اشکال نداره حتی شما حداقل آگاهانه. بعد اشراف داشته باشه که تو چه فضایی داری عمل میکنی و کنش میکنی ما عرض ما اینه که یک کار جدی بعد که حالا از مطالبات جدی از تاقام هستش و بحث تولید علم اسلامی هستش اینه که ما اون پارادایم اسلامی دانش رو بهش برسیم یعنی ما ببینیم آقا این هشتا سواری رو که دارن در ارتباط با واقعیت اجتماعی پارادایی مختلف جواب میدن تو نگاه اون چارچوب اسلامی ما چه جوابی ب خیلی مختصر باید ارز بکنیم که <تصفيق> من سوالات رو یه بار دیگه اینطوری مطرح بکنم آیا واقعیت اجتماعی صرفاً امور نیست که قابل مطالعه و علتکابی تجربی آیا واقعیت اجتماعی امری ذهنی و بینال است که نیاز به معناکاوی داریم آیا واقعیت اجتماعی رو زهر سنن اجتماعی و تاریخی باید مطالعه کرد اینها سوالاتی که مطرح میشه ما ارزمون اینه که تو نگاه اسلامی این هشتا سوال پاسخ بومی داره. این هشتا سوال آقا محقق برای چی میرسه سراغ مطالعه این اجتماعی؟ آیا هدفش اینه که فقط تبیین بکنه؟ آیا هدفش اینه که تفسیر میخواد بکنه؟ آیا هدفش اینه که تغییر میخواد بده؟ این واقعیت اجتماعی خودش چه ماهیتی برخورد داره؟ حالا این سوال من... کانونی ماشونی اینجاست اون بحثهای دیگه که واقعیت انسانی بوده، اون هم حتما تاثیر داره. که شما واقعیت انسانی رو چگونه فهم کردی که اصل تصاویر رو پذیرفتی و اصل تصاویر زن و مرد رو مبنای قانونگذاری قرار دادی و در الزام کردی کشورهایی که به کنوانسیون رفع تبعیض زن علیه زن باید ب... میپیوندن بعد در قوانین اساسی و قانونی خودشون جریان بدن پس اون نوع نگاه شما به انسان بود اون پیدای انسانی رو شما رو فهم کردی که اون اصل رسیدی و اون اصل رو دادی در نظام حالا واقعیت اجتماعی رو چطور فهم آیا واقعیت اجتماعی یک پدیده کاملاً پوزیتیوه؟ آیا یه واقعیت بینال اصحانیه؟ ها... به نظر میرسه که حالا باید ت... اساس فلسفه اینجا بیشتر کمک بکنه که واقعیت اجتماعی از منظر اسلامی یک پدیده یک واقعیت زومراتبه هم ظاهر داره هم باطن داره شما هم باید ظاهرش رو فهم بکنی هم باید به لایه های زی واقعیت اجتماعی رو باید در دایره چنین دستگاهی مورد توجه قرار داد. واقعیت اجتماعی در پارادایم اسلامی دارای سطوح و لایه‌های از عینیت، ذهنیت و فراتر از این دوست. ابزارهای کشف واقعیت اجتماعی نیز ام از عقل تجربی و تجریدی و نقل است. یعنی شما وقتی که در قانونگزار اسلامی ما میخواد با پدیده اجتماعی مواجه بشه نمیتواند معارفی را که شریعت داره بشه عرضه میکنه توجه باشه. یعنی شما خانواده را میخوای فهم بکنی فقط یه توصیف تجربی از اون چیزی که در جامعه در حال جریانه جریانه اون کفاید نمی کنه شما ببینید که در معارف توحیدی ما خانواده چه ماهیتی براش در نظر گرفته میشه خانواده خدمت شما عرض کنم که چه قایتی براش متصوره حالا من عرض کردم که در قوانین در خدمت شما عرض کنم که در سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری اونجا تصور مثلا اون نگاه مطلوب ما به خانواده نشان داده میشه این باید مورد توجه قانون باشه یعنی اگه قانون گذار ما سال 90ی اومد قانون حمایت از خانواده وضع کرد و سال 95 سیاست ها ابلاغ شد حتماً باید بازنگری بشه یعنی اون ب... سؤال سال من اینه دقیقاً سال من از قانون گذار محترم اینه که آقا شما با چه برداشتی از خانواده این یعنی ماهیت خانواده رو چی فهم کردی چه قایتی براش در نظر گرفتی که رفتی حق مثلا طلاق رو مثلاً طلاق توافقی رو تو این قانون آوردی و تثبیت کردی واقع می‌کنید تا حدی که دو... اساتید دیگه تحلیل میکنم میگن آقا این قانون قانون حمایت خانواده قرار بود باشه ولی شو قانون حمایت زن. واقع میکنی جریانات مدافع حقوق زنان و اون افکار و اندیشه‌ها به شدت تأثیرگذار بود تو این قضیه. حالا من خواهم بگم ببینید تو سیاست‌های ابلاغی خانواده چطور تعریف میشه تو اون نگاه خدمت شما کنم که وام گرفته از کنوانسیون طبیز علیه زنان، کنوانسیون حقوق بشر، کنوانسیون های دیگه چجوری خانواده تعریفش؟ خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلاع معنوی کشور و نظام و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باهم باشه. خب این چه نگاه؟ به نسبت به خانواده تا اون نگاهی که بگه خانواده همین دیگه شما برو اگر هم این توافق کردن که دور هم مثلا دوتا هم جنس هم با هم باشن این هم باشیارم. هم شما با عنوان خانواده بپذیر اگر قرار شد مثلا آموزی جنسی تا مدارس رسوخ کنه تا سنین نوجوان مثلا رسوخ کنه چشکایی داره این کماسینا داره آتو چه فهمی داشته از خانواده که این رو تش... ترویج کردی و تبلیغ کردی و الان میگم این مقاومتی که در قانونگذاری ما بوده واقعا قابل تحسین و من این رو نمیخواهدیش بگذرم و. یعنی ما اگر این مقاومت رو نداشتیم این سیستم قانونگذاری اسلامی رو نداشتیم تا اینجا باید منتظر این باشیم که آقا نسبت به سخت جنین نسبت به آمودش جنسی در مداره نسبت به شناسایی هر گونه هم باشی به عنوان خانواده. رد می‌کنی اینا تو که تو کنوانسیونه اومده حالا ما نسبت به اینا مقاومت کرده اینا حسن قوانین و قانونگذاره ما ولی از این ور من داره میمقداری سطح تحلیل رو یه مقدار عمیق‌تر میگم قانونگذار اگه تو این فضا باشه به با اون افاق تمدنی نزدیک میشه یعنی تو شما تو افاق تبدانی نمیگی من نمیتونید بگی آقا من این گونه تو نظام فکری غرب میاندیشم بعد میخوام قانونگذاری کنم برای جامعه اسلامی جامعه امت واحده اسلامی یه قرآن ازش یاد میکنه که باید در افق تمدنی ما به اون سمت بریم و نه تنها قوانین با با سایر قوانین هم باید به این سمت حرکت کنه بحث تحکیم خانواده مطرح در اینجا کارکرت های خانواده اون آید و اهدافی که میبینید در این نگاه مطلوب ما مشاهده میکنیم و وجود داره پس تو این نگاه خانواده یک اولگوییه که بر اساس نهاد ازدواج به صورت قانونی و شرعی شکل میگیره اما تو اون نگاه هر نوع روابط عاطفی به عنوان روابط عادی خانواده تلقی میشه دیگه بر اساس اون نتایجی همین بحثایی که تو وازیه مشروعیت دادن به روابط همجنس گرایان و آموزش مسائل جنسی و در مدارس و به رسمیت شناختن سفت جنین و از این حرفایی که حالا در نقد این قانون جوانی جمعیت تا دلتون نسبت به این موضوعاتی که اونجا حالا روی کرده ایجابی اتخاظ شده دارن نقد انجام میدن حالا من میخواید اجازه بدیم یه توقفی یا یعنی اینکه من ادا... ادامه بحثم میخواید حج و صلاح استاد اگر من میخواستم اگه بشه حالا بحث رو تمام کنیم بحث میکنم استاد بردم یک مختصری تقریری میکنم از بحث رو و بعد استاد بزرگوار چیز می‌کنن نفطشون رو برمیاره این یه فرسیک پاسو رفتاری اتفاق میفته تو من حالا بله آقای دکتر شما حدو به بفرمایید با شاگرد شما شما, شما, شما من یه بخش دیگه نتیجه گیری مونده که با توجه به این که بگیم آقا اگر این مقدمات رو ما بپذیریم چه اصول کلی میدونیم دست قانون گذار بدیم آقا این قانون گذار شما حتی در اون فضایی که میگید آقا منطقه الفراقه و ما میخوایم به کارشناس مراجعه کنیم و میخوایم به تو فضای قانونگذاری عرفی ورود بکنیم این اصول رو بعد مورد توجه قرار بدید بعد می‌کنیم اگر اجازه بدید من این اصول رو بگم یا یعنی اینکه هرجوری شما فکر می‌کنید می‌گم حالا روی کتاب الان من توفیق دبی بوده تو از من اینجا پاکستان اینجوری بوده حالا هر جو شما صلاح میدید چه استاد اختیار نه خواهش میکنم پس من این بحثم ادامه بدم خصوصی ارثیاتی هست والا میخواهید می یه آره. دفعه تمام کنید بعد استاد یک دفعه نادام من... شاید مثلا مطلبی باشه ببخشید استاد مسئله میخوان نکته ای داشته شاید شما بعدا میخواهید پاسخ بدید و دیگه چی نشه اینه, دفعه اینه دفعه که دماشته. ما خواهش میکنم من حالا با تجربه وقتی محددی که داشتم چندین اصل رو استنباط کردم و عرض میکنم این اصطلاح قابل توسعه هم هست یعنی این نیست که فقط همین ها باشه و ما اصراری هم رو این ها داشته باشیم ولی با توجه به این فرصت مهد میخوام بگم اگه قانون گذار میخواد تمدنی بی اندیشت و تمدنی عمل بکنن ناگزیر است که به این ها توجه داشته اول اینکه آقا قانون گذار ما باید تعامل منضبط با نظام های حقوقی دیگه داشته باشیم من پیشینه‌ای که گفتم نشون میده که این تعامل تعامل منضبط و روشمندی نیست یعنی اون اقتباس کامل تا فضای ترجمه‌ای و تا فضای این که اندیشه‌ای یعنی تو یک اندیشه‌ای فکر میکنیم که برسیم به قانون خانواده سال 91 و یه سری مشکلاتی که تو قانونگذاری حالا حوزه خانواده وجود داره حالا من عرض میکنم تو حوزه خانواده من مطالعه دارم خدمتون عرض میکنم تو حوضه های دیگه قانونگذاری هم <تصفيق> حالا یه مثال دیگه شما بخواهم ارز کنم تو بحث حکرانی مطلوبه حالا که اینا دیگه مربوط به موضوع دوستانی که تو مطالعات علوم سیاسی کار میکنم این گود governance یک تئوریه. این تئوری طبیعی میشه تو قرار شاخصاش در میاد حاکمیت قانون شفافیت پرا. اینا ترویج میشه تبدیل میشه به کنوانسیون کنوانسیون ها بعد بری بهش الهاق بشی اینا تبدیل میشه به اصول قانونگذاری شما ببین قبل چه گونه داره قانونگذاری تمدنی میکنه خب چرا ما نباید تو عرصه حکمرانی بحثهای اصلی اون مباحث کلانمون تبدیل کنیم به نظریه هایی و این نظریه های خرد بشه شاخص گذاری و اینا تبدیل بشه به ضوابط قانونی و ضوابط باید اونویتی که جا، جا، جامعه و جهان رو حل بده جهت بده به سمت کما تو ارزیه حکمرانی هم یک باز یکی از این مسائلی که ما الان با روی کرده ترجمهی به شدت مواجهیم تو ادبیاتش نوعه خب دیگه الان شاید هم باب شده باشه هرکی بیاد میگه آمام هم می خوام اسلامی بگیم باز میریم همون ادبیات ترجمه ای رو برمی داریم بیاریم و آره این مشکل ایجاد میشه قانونگذار ما بعد به اینا خیلی دقت داشته باشه چون ما می یک جامعه اسلامی رو بنیان گذاری کنیم ما می یک تمدن اسلامی رو بنیان گذاری کنیم که محوریت این جامعه توحیده نگات می ما باید پدیده اجتماعی زیر اصل توحید فهم کنیم حالا اینا رو باز عرض بکنم. خود نظام قانون، خود قانون گذاری و خود قانون نیاز به با باز تعریف داره برای قانون گذار ببینید اگر قانون صرفاً یک پدیدی پدید پوزیتیویستی حالا اون شاخص های اصلی قانون پوزیتیویستی رو میگن این اصل تفکیک بین قانون و همه معارف الهی. ما میگیم اخلاق اصلا قانون نمواد مقید به این چیزا باشه. خب اینا اصولی که از اون قانونگذاری پوزیتیویستی نه ما میخوایم ای باشیم طولا طولا این قانون‌گذاری باشه به تعبیر از دایتالا مرحوم آیت الله که آن نظام حقوقی ما زیل نظام اخلاقی ما فهم میشه نظام حقوقی ما و نظام اخلاقی ما زیل نظام معرفتی ما فهم میشه این خیلی مهمه من حالا یه حرف رو چند نشه با اسادی دیگه صرفا توی ما دیگه فکر من با خودمون که میتونیم این حرف رو بزنیم <تصفح> حالا این حرض برای شناخت واقعیت اجتماعی همینطور گفتم ما قانونگذار ما نیاز نیازمنده اینه که یاد تو اون نگاه پاردام اسلامی یعنی فهم کنه که آقا پیده اجتماعی پدیده ساده ای نیست پیچیده است لایه های زیرین و روین داره باید از ابزار متنوع برای فهم واقعیت اجتماعی استفاده کنه حالا همینش هم ممکن بگید آقا قانون الان قانون داره وزم کنه این حالا بعضی ما ها گلای گلای حقیه ها سه اصول دانشگاه میاد میشنم یا حتی این قانون رو نوشتی نیاز نبود یه بار ما هم دعوت میکنی بگی نظر رو ما هم بخوای ممکنه که آه اصلا شما مطالعات کمی و کیفی هم ندارید برای قانون گذاری همین چیزی شاید باشه حالا ما شاید خیلی اطلاع نداریم ولی فراتر از این شما باید برید مثلا نقل هم واکا بی کنی. یعنی بعد ببینی که آقا مقام تو مقاصد شارع مقدس نسبت به این ما که یه بحثای ارز خواهم کرد خیلی هم اجمال که آقا فقه ما چقدر کمک است و این عرضه و چه, چه،, چه روی کرده ای داشته باشه فقه ما هم باید تمدانی بشه ما فقه همون تو قبل از انقلاق یه فقه بود که به عرضی حکمرانی نیمده بود به عرضی اجتماعی نیمده بود مسائل اجتماعی بهش عرضه نمی شود. تو جمهوری اسلامی ما در حال تکوین فقه اجتماعی هستیم. خب این حرف حرف قابل توجهیه ولی تا برسیم به فقه تمدنی که مسائل تمدنی بیاد عرضه بشه. خب ما خیلی ما اگر دیدیم یا این کنوانسیونایی که من داشتم اسم بردن در دروس خارج ما بحث شد اون وقت می‌بینیم که یه مقداری ما داریم نزدیک میشیم به اون فضا. الان ما خودمون با سازمان اجرایی درگیر هستیم. مسائلی دارن که م... مسائلی دارن که کسی جواب نمیده. تو بحث حالا من اخیراً با یکی از دانشگاه علوم پزشکی کشور ایشون میگه ما رفتیم فرانسه میگم آقا این افرادی که در مغز مرگ مرگی مغزی شدن این دیگه حیات م... گیاهی داره دقت می‌کنید با اینا چیکار می‌کنید میگه آقا ما یه اتاق داریم اتاق مرگ تسهیل میکنیم و یا علی چرا خب چون بالاخره آقا این نگه داشتن این هزینه داره از اون ور نمیدونم ممکنه هزاران نفرم نیازمند این اتاقه باشن اتاق این تخته باشن که اینشون هم بیاد آقا میگه آقا بیا اینو تو رو خدا برای من حل کنید بالاخره مرگ یعنی چی آقا یه به من بگه مرگ چی من الان که تو این تزاهم قرار گرفتم که آقا این فردی که دوچار مرگ مغزی شده رو مثلا 20 روز یک ماه من تو این اتاق نگه دارم و حزینه رو از اون ورد جوانی که اومده پشت این در بیمارستان منتظره. منتظره اون پیرمرگیه که در حال مرگه این جوانی که اگر وارد این اتاق بشه، این تجزید استفاده کنه حیات بهش بر میگرده آقا این تضاهمه بیا حلش کن برا من رئیس دانشگاه علوم پزشکی کشور داره یکی از دانشگاه میگه این برای من حل نشد آقا فقه اجتماعی یعنی آقا این مسئله رو نمونه پس فقه به عنوان محور اصلی در گذاری تمدنی هم باید ارتقا پیدا بکنه و باید تو اون افق ن... به اون افق نزدیک بشه حالا یه نکته که من مورد علاقه ما هست که تو این بحث شناخت واقعیت اجتماعی ارز بکنم این که از این جریان انتقادی استفاده بکنیم جریان انتقادی میگه واقعیت اجتماعی ذیل این سنت های اجتماعی فهم کنه خب ادبیات های اجتماعی تو حوزه اسلامی هم کم رنگ نیست مخصوصا با تلاش وافری که مرحوم شایصد کردن سنت های اجتماعی در قرآن تلاف... تلاش به شدت قابل توجهی که از زای تعالی مصفا داشتن تعبیری که از زای تعالی جوادی دارن که دانش سنن الهی یکی از رشته‌های علوم اسلامیه که مقفول واقع شده یعنی شما میتونه اینو به عنوان یک حوزه دانشی مورد مطالعه قرار عرض ما اینه که آقا قانونگزار ما قانونگزار ما در افق تمدنی واقعیت اجتماعی رو باید زیل سنت های الهی فهم بکنه و ناظر به این سنت های الهی وضع قانون بکنه مثالشم در همین بحث خانواده تعبیری که عزیزت آقا دارم یا خانواده خودش یه سنت الهی سنت الهی تکوینیست و تشریعی تشریعی رو شما با اون متد کشف اراده ایشاره که به صورت اجتادی دارید کشفش میکنید تکوینی هم که با همین ابزار عقل و مراتب عقلن بته نه این عقلی که صرفا مراتب داره پس ما در افق قانونگذاری تمدنی باید قانون رو زیل سنت های الهی فهم بکنیم باید واقعیت اجتماعی نباید شرمنده باشیم از این که میگیم خانواده یعنی این ما چرا شرمنده ایم؟ ما به این وعده الهی توجه داشته باشیم که سنت الهیه که کتبلا لعقلبن نعنه و رسولی آبا دیگه از این شفافتر بیدیم شفافتر دیگه. اگر میخواییم ما لایه های زیرینه واقعیت اجتماعی رو ببینیم صرفا در بحث جنسیت، نجات، طبقه اینا نبینیم اون جریانی رو که قرآن داره به, ج... به عنوان یک جریان بنیادی از یاد میکنه تع... تعارض و تقابل جریان حق و باطله و داره میگه آقای که اومدی پای کار حرف حق میخوای استقامت کنیم مطمئن باش که حق بیروزه آقا اگر وقتی شما با جدیت این فهمتو از خانواده انتقال دادی به اجتماع مردم فطرت دارن جامعه حالا ممکنه تو یه دوره این سرکوب بشه بالاخره این گرایشا میاد میگسن یعنی شما اگه قانون گذارید منطبق بر فطرت شد منطبق بر این سنت ها الهی شد میان به سمتش ما سی هاش نکنیم ما سی هاش نکنیم صرفا بگیم فلان تئوری رو از قرب افتخار کنن آقایینی که تو سلک روحانیت بودن افتخار میکردن تو یه ای که من رفتم از فرانسه این قانون رو ها که اختیارات مرد و توضعی خانواده انقدر محدود کنم پرام کنم این افتخار نداره این نشون میده که شما تو پارادایم اسلامی تو چارچوب اسلامی تو منظومه فکری اسلامی فهم نکردی واقعیت خانواده رو و این حق طلاق رو این حق نمیدونم اختیاراتی که برای مرد دیدن و البته این به معنی نادیده گرفتن حقوق زن نیست حالا این یکی از اون اصولیه که پس قانون‌گذاری باعث انصافا نکته آخری هم عرض کنم اینه که ما خیلی سیحاش نداریم و ارزم کردیم که ما یک نظام قانون‌گذاری کمال‌گرا و باشه دقت می‌کنید ما باید قانون‌گذارمون الگوی مطلوب واقعیت اجتماعی رو داشته باشه الگوی مطلوب رو در عرصه حکمرانی داشته باشه الگوی مطلوب رو در عرصه خانواده داشته باشه و در راستای اون در امتداد اون وضعیت موجود رو شناسایی کنه و ناظر به اون قانونگذاری کنه که من باز مذارت خواهی که اطالیت کلام شد و امیدوارم که مزاهمت ایجاد نشده باشه و, و در خدمتم که انشالا از نقطه نظرات از ساتید محترم استفاده کنیم و این بحثی که به نظرم خیلن کفایت میکنه من در خدمتیم تشکر بکنم سلامایی دکتر کهفنده از ریست با بیان شیبا و جامعه خودشون موضوعشون رو ارائه دادن و به عقاد مختلفی هم اشاره داشتن که کنال این موضوع بود بسایل مستاقی بس در بسوازه زنان و اسفره نازه به صورت کلی به همین مختصر و اجمالی از بیان عزیز صحبه را از من داشته باشم که حاله بسوازه اصول قانون بر روی کرده تمدنی در افوق جمهوری اسلامی ایران اشاره دوستین که مسئله یک مسئله زوارباد و میانداشتهی هستش و بحث تصیل رو بودن موضوعی که فلسطه قانون و دوزون به فهم این فضا هستش و اشاره به اون تحقق تمدن نوین اسلامی تو آرمانهای جمهوری اسلامی داشتن و در ادامه که باید قانونگزار نازر به این فضا فهم تمدنی داشته باشه که بتونه در این پارده هایی باشه و پیشنه ای از موضور را اشاره کردم که فرایندهایی هایی که قانونگذاری های اسلامی که در کشورهای مختلف فذیر مث و تو کشور انقلاب اتفاق افتدادیم. اشاره کردم و به صنعت ترجمه و تاثیر اون بر وزه قانون که اشاره با همه مقاومت هایی که در کشورهای اسلامی بوده ولی چیزی که متاسفانه مشاهده می کنیم، حضور قوانین، قربی با تفکرات مختلف کشور نسید و به اشاره داشتم در دانه بحث که اگر قرب یا تفکر اسطلاح هم در مقابل جمهوری اسلامی را نتوانسته در عرصه های مختلف در عرصه کشوری قانونی را بحث کنه در قالب کومانسیون های اومده این فضا رو ارائه کرده و کشورها رو ملزم به اجرای اون کرده ای خب این هم اشاره که بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایرهان بود موارد اختباساتی هم صورت گرفته ولی به صورت کلی انتباقاتی با شر صورت گرفته و مانعین شده و اشاره به تفکر فلسفی در فضای قانونگذاری داشتیدم که اینجا یه مطلبی ببخشید استاد من بیاده میدونیم یه بیانی از حضرت آقا به ذهنم رسید از حضرت آقا که حضرت آقای تویی که بیاناتشونی بیانی دارن معنیبراین که می‌فرموند قرب وقت برای فوتبالشم فلسفه تولید کرده که آقا می‌فرموند باید بیایم برای کارهامون و همین مسائلمون فلسفه تولید کنیم. از روی شاید هم یک قرب پایانش رو بعد نگاه کنم الان خواستید فیشش هم بیارم که از آقا می‌فرموند قرب وقت برای فوتبالشم فلسفه تولید کرد. چون فلسفه‌اش رو تولید کرده و آورد و انتداد اجتماعی داده بهش و این اتفاق بده. این نکته هستش که بله باید این فضای تولید فلسفه برای چیز اتفاق سه سوالاتی که در که یک کنشگر اجتماعی بخواد این فعالیتی رو در اجتماعی داشته باشه هشت سوالی که باید پاسخ بده نظیر زیر هدف و مسائل مختلف اشاره داشته جریاناتی که تو فضای قانون‌گذاری روی چارت‌هایی که در این فضا وجود داره نظیر جریانات پوزیتیویستی، جریانات تفسیری و روی چارت‌های انتقادی اشاراتی داشتن که و این فضا و اشاره به این جلیانات تاکید داشتن که قانون‌گذار باید فهم صحیحی داشته باشه از فضای پارادایم که بتواند بداند و بتواند که با چه روی کردی داره الان داره با فضای به قانونی مواجه میشه و اشاره در ادامه بحثی لازم به فضایی که این واقعیت اجتماعی چطوری باید شناخت بشه شاخصه ها با میلان کاش چطوری که اشاره دوستانه که مساله زومراتوری که برای خودش پترنهایی رو داره و های رو داره یه مطلبی هم اشاره داشتن که خسن قانونگذاری ما این هست که در مقابله این قانونهای بین مللی محاومت کردیم من یه جاهای نظرم واقعا حس میادم و تو اینگه مورد حس میگنم از آدم میگم اگه بخی از این آقایون بود تا الان داده بودن همین رفته بود به ذهن من بیده چون ساخت اجتماعی نظر خودم ساخت اجتماعی ماجوری هستش که نمی همین نه. ساختار قانون‌گذاری که قانون اساسی ایجاد کرده خودش خیلی مقاومت ایجاد می‌کنه. یعنی شما قانونی که حالا کارشناس تو مجلس میارن این تو فیلتر ش... شورای نگهبان این فیلتر دقیقی بعد به بار خداش. به اصول قانون‌گذاری تمدنی داشتن که لازم است چه ظرفیت فقه در یاری دادن به این قضیه پای کار بیاد و گستریشاتی رو داشته باشه که بیان مرحوم نیزای ماینی یادم افتاد که تو تنگیر آنگای اشاره دارن ناظر به این که میان ما همه قایده ابقاء ما چقدر رسلن علماء فروعات هم قایده استسواب دار بودن و اینکلا توزه ایما هر جور ورود بکنه این ظرفیت در فقه ما هست اینکلا فضا شیجات میشه و روزه بارا ورود باشه بی عدوی یه رو بکنیم بسیار استوازه کردیم فرکی عزیز شما مکنم شما ما هم سید و ما بی عدوی بکنیم بلی حسب عمرو وزیدی کننده شده من خویتون مدیدت را خیلی باشی من زیاد تو باید نمکنم زیاد تخصوصم در بس ندارم و نازد به این که اگرم سوالاتی هم سید بفرمید که سرور عرضی مونتی بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیه سیدنا محمد و عالی تاهرین خب خودم بسیار استفاده کردم از بیانات علمی محکم و بسیار عرضشمندی جمعای دوچور کهوند و مطالب خیلی خوبی رو ارائه دادن و واقعا هم از دقدقه های همه ما هم هست لاخره قانون اصول بنیان و اساس یک جامعه متمدن هست و این جامعه متمدن بدون وجود قوانین کارآمد و قوانین درست اصلا قابل فهم نباشه و برای اینکه ما به یک افق تمدنی مطلوب در حوزه قانونگذاری برسیم یقینا نیاز به آسف شناسی در حوضه تقنیم داریم. یعنی من در تحقیقات به عنوان هر مسلم رو تلقی میکنم که اگر ما خوایم مشکلی رو حل کنیم در هر حوزه ای تا وقتی آسیب شناسی درستی نداشته باشیم. تا وقتی که نفهمیم مشکل ما بحث ما چیه آسیب ما کار ما چیه یقینه هیچ موقع به نسخه درستی هم نمیرسیم و اولین گام برای اینکه ما بتونیم به یک نظام قانونی یا حوزه تقنینی مطلوب در افق مطلوب جمهوری اسلامی برسیم با یک آسیب شناسی رو در حوزه تقنین داشته باشیم این آسیب شناسی در دو تا محور میتونه مورد توجه قرار بگیره حالا جالب که این عنوان درسی رو که توسط اول فرستاده بودید راهکارهای از به خدمتون حووزه بود بعد چود اصول که اتباقا ما تو هر دو حوزه مشکل داریم یعنی هم دو راهکارها مشکل داریم هم در اصول مشکل داریم و در راهگارها می بینید که ما در حوزه تقنیم با اشکالات خیلی جدی مواجه هستیم اصلا ظرفیت قانون بزاری و ظرفه ما از این جهت واقعا دارای اشکال هست یعنی ما حتی ببذیریم که تمام فرماشات جنوبای دکتر قهبان رو, رو که اصلا بیام در افق پرادایم حقوق اسلامی و بر اساس اصلا مبانی فقهی اون احقام فقهی رو تبدیل به قانون بکنیم همین یا ما واقعا ظرفیت ها ما رو به درستی میشنستیم میتونیم همین تبدیل رو انجام بدیم یا نه با که ما تو مثلا ما مباعث مدنی خوب ترغمه تجربه صد سالی رو داریم که قوانه مدنی من فکر دکتر بیان فرمودن بودن غالبا متخذ از نظر مشهور فقا و اینقدر مورد احتمام و توجه فقها هست که من یادم هست جلسه خدمت مرحوم از تایز الله صافی گل پایگان رسیده بودیم در خصوص مشورتی که می خواستیم بگیریم در خصوص تدوین قانون مجاز می نوارو دو مرحومات لسایی فهمودن که خبرگان اول ما به دنبال این بودیم که ای قانون رو تصدیف کنیم تر اصول قانون اساسی که قانون مدنی جز قوانین قابل تغییر باشید چون ترمیم قرص رو داشتیم که بعدا بیان همین قانونی که بلاخرد عمده و اساسش بر اساس مبانی فقه هست و بیاند دستفاری کنن و تغییر بدن اما در حوزه اوکیفری ما این ظرفیت رو به درستی استفاده نکردیم ما حالا و از انقلاب سه تا قانون عمده رو در خصوص اوکیفری و قانون مجازات داشتیم این قانون حدود قساس سال 61 و, و قانون بیاد سال 61 و قانون مجازات تعذیبات 962 هست بعد همون قانون شد قانون مجازات اسلامی 1070 بعد تبدیل شد همون قانون به قانون مجازات اسلامی 92 شما همون قانون 70 رو ببینید که پارداه مهرداشون پارداه فقه پارداه مهرداشون توضیح فقه اما شیوه قانونگزایی و روش قانونگزایی و کیفیت قانونگزاییی رو دوطور رو مؤهوزه را بدیم که آقا این قانون که هر دوشون بر اساس موازین فقه اصلا هر دوشون به نقل میتونیم که بر گرفته از فرق هم از نظر اسلوب قانونگذاری روش قانونگذاری شیوه قانونگذاری چه نقاط مثبتی دارن، چه نقاط زرفی دارن جالبه شما یه عاصب شناسی اجماعی انجام بدیم این که خب هر دو دارد یه پارادایم داریم تولیش شدن اما تفاوت ها خیلی چشمیره. نگاه ها خیلی چشمیره. اشتباهات فاج تفایش میسرن تو که توی هفته اومده همه مباحث تر به من یک جو ترجمه منابع فقهیه و تداخل مباحث تکرار مباحث مباحث شکلی ماهوی اجرای احکام عدلی اثبات همه به صورت خیلی مخلوط پیچیده همونطور که مثلا در تحریر مباحث چیده شده همین منتقل شده به قانون و خوب میبینید که در دو گذار تو همون پایدان پا برش کرد اما اومد یک ارتقای رو در نظام قانونی ایجاد کرد و یکی از مشکلاتی اساسی که ما در بحث توزه تقنیم داریم در بعض اهمون راهکارها و که حالا این اصولی که جناب دکتر میفهمان رو چه سیستمی میخواد کشف بکنه و چه سیستمی میخواد این رو تبدیل به قانون بکنه آیا این مجلس شروع اصلاعی ما این توان رو داره این ظرفیت رو داره که بیاد این پدیده اجتماعی رو کشف بکنه چون مثل تو همین پدید اجتماعی که این بحث مثلا فراش کنم جنابی دکتر بحث خانواده رو مثال زدن خب خود افق فقهی نگاه فقهی به خانواده یکسان نیست که نگاه فقهی غالبی شنید که این زن باید خانشینی بلاختر اولگوی مطلوب نظام خانواده هست خب این نظام هست نظام معظم رهبری دادن که نقش فعال خانواده و زن رو در اجتماع در نظر می گیرن خب این یک الگوی دیگه از همون هر هم بر مبنای موازین دینی هست کشف این نظام ها و اینکه این نظام ها بشه و تبدیل به قانون بشه این ظرفیت رو هست مجلس ما داره یا نه من نمی دوستان با مجلس کار کردن نکردن با کمیسیون ها کار کردن یا نه الگه یک از مهمترین کمیسیون هایی که مستقیما گیر ارتباط با قوانین و مقررات از کمیسیون قضایی مجلس است جالب من ازشون در خصوص روند قانون مشی 92 خیلی درگیر بودیم با این کمیسیون. آید دکتر خیلی از کسانی که تو هیچ کمیسیونی جذب نشدن من تو کمیسیون قضایی جذب میشن. کسانی من تو کمیسیون قضایی جذب میشن که نه از فقه چیزی بلدن نه از حقوق چیزی بلدن. دو واحد حقوق پاس نکرده. بعد این میخواد بشه بعد متولی تدوین قوانین و مقررات از من برخی از خاطراتو شده نشه اینجا مسلم چون زفته میشه اینها ولی واقعا کسانی بودن که مسئول به مسئولت شما سلوات ترستادن بیاریم <تصفيق> تنها کاری که از این بر نیومد اگر یه ماده تصویب میشود دیگه سلوات خب ما با این ظرفیت آیا واقعا میتونیم قانون در تراز جمهوری اسلامی و الگوی تمدلی تولید کنیم نمیشه واقعا حال دیاله بکنم چون مثلا نماییت مرستان گوه که آقا ارسان کارشناستان هم هر نظر بدهن میگن نظر ما هست که با کبیل به قانون بشه خب الان الحمدلله خیلی بهتر شده یعنی الان بالاخره خیلی مرکز فروشی مجلس داره مشوریت میده مرکز تقیقات اسلامی داره مشورت میده به اینها ولی اون مجلس شورای اسلامی که مغنن و قانون گذاره بر اساس اون اصول تفیه و هست این وظیفه اساس قانون گذاری ولی خب الان شما چند تا حقوقدان برجسته میشین نام ببرید که در مجلس باشه چند تا فقیه برجسته را نام میشین رو که تو مجلس باشه البته تو مجلس اول دوره اول برخصوا بودن الان دیگه تقریبا فوق اساس مجلس منفک شدن جدا شدن حتی حقوق دانهای قوی هم نیستن حال جالبه. اگر یک حقوقدانی هم آمد در مجلس تو کموشن حقوقی نمیاد میگه من بگم تو کمیشنی برنامه بودجه بگم تو کمیشنی استشهاد خارجی حالا خودشون میگفتن گفتی آقا ما بیشترین کار رو دور حقوقی داره نه سفر خارجی داری. داریم نه نمیدونم انفلوئنتیاز داریم نه فلوئنتیاز داریم رئیس قوه قضاییه هم مسافرت استانی میره هم ما رو با خودمون نمیبره یعنی <laughs> شما این سیستم یک مسئولیت مهم روی دوش هست دوشش هست ولی اون ظرفیت ها برای سیستم چیده نشده و لزوما اصلا فهمی این دکتر رو اینا ندارن که اصلا هم مطمئن دکتر هم که فرای دکتر برن حکومتشون این مطالب رو توضیح بدن این چند تا اصلا مطالب رو میفهمن تا بعد بتوانند عملیاتی و اجرایی بکنن خب بس ما اصلا комиسیون مثلا مایل یه قانونی رو قانون اساسی براتشون گذاشته یه وظایفی که ازشون میشه یه مت مسئولیت رو مردم و موکلین ها می خونن اونا اصلا ازشون قانون‌گذاری نمیخوان اینا اگه یادم را سوال کردید برق گرفتید آب گرفتید رو واس کردید خب این خب اون راهکارهایی که کردم که ما چون چون سیستم اول بحث بود ما یه بحث اصول تعریف میشه یه بحثی این اصول را عملیات بکنیم که ظرفیتایی برای عملیتی کردن اصول داریم در فهم پیدا اجتماعی یه بحثی که نوبای اجتماعی بداخلیم به این راحتی نیست که ما مثلا از به خدمتون این پیدا را فهم بکنیم حتی تو حوضه فاقا ببینیم که در فهم این پیداها ها دیدگاهی که نسبت به خانواده هست دیدگاه دیدگاهی که نسبت به مجازات تظهیر عقوبات همون بی نظمی که جماعی دکتر فهم بودن که ما در حوض حقوق داریم داریم اخصاص به حقوق شما نداره دکتر ما در حقوق مدنی فریمان این بی نظمی داریم در همون قام مجالستان مثال 92 یه ماده دویسو پنج بود اگر اشتغال نکنم مجلس تصویب کرده بود که به اساس این ماده تمام دویسو پونزده که به اساس این ماده تمام و حفظ حد اقل به حد یعنی اگر مثلا مجازات کلاه ساده که الان یک تا هفت سال هفت زندان هست این میشه درده چهار. درده چهار مجازاتش از پنج تا ده سال هست تمام مجازاتها ها مثلا کلاه از پنج سال به ده سال تبدیل میشد یعنی هم حد چهار سال اضافه میشد هم حد سه سال اضافه میشد شما قیاس کن همه مجازات ها به همین صورت راندمی موجود افزایش پیدا میکرد جالبه در همون سال 88 که این مجلس این قانون رو ماده رو پیشنهاد کرد، البته ما تلاش فراوان کردیم، به دو دیوار زدیم تا بالاخره شورای نگهبان گفت با این برخلاف های کلی رهبری راهبردی هست و حذفش کرد، این خلاف سیاست رهبری اعلام کرد بالاخره حذف تو به قانون تبدیل نشد. ولی همون زمان درس این مسئله ارسالی سال 88 است به مجلس شورای در همون سال 88 قانون جرایم رایانی تصیب شد که کلاهبرداری مرتبطه با جرایم رایانی مجازات چقدر شده یک تا پنج سال حس یا تا پنج میلیون جزای نقدی تا بیست میلیون جزای نقدی یعنی قانون که در همون سال اومد کف و سقف همه ها رو بدون یک ساعت مطالعه این گرنه توش داده در همون سال اماده کلاه برده رایانه را مجازه داده خب این یعنی بینزمی و آنومی که ما در حوزه تقنین داریم این خصوص ملیس هم متصفه نداره الان ما حوزه های تقنین ما متنوه شده شورای فرنگی بر خودش تقویم داره شورای اقتصاد بر خودش تقویم داره شورای وقت بر خودش تقویم داره ما از چهار فهم بودید که بالاخره اصل بسیار مهمه که همه قوانین باید متابقه با موازین شر باشه حداقل قد نباشه و شما گهون باید نظارت کنه خب الان چه قوانینی که از خدمت شورای وقت شورای اقتصاد تو انواع مجمع قانون دیگه تصدیق میشه تو همین شورای شهر تصدیق میشه کجا تایید میشه که اینا ای مطابق قوانین شهر اصلا یا نیستن اون فقط اختصاص پیدا کرد به شورای مجلس اگه مصوبه مجلس نباشه دیگه کلا این سیستم مثلا مرتجوی قرار بر... نمی گیره بعد تو قانون ادلات اداری مقرره آن... داریم اونجا اون میتونه آینامه آینا هایی که مقایر با قانون یا باشه رو نفت بکنه پس این که مصببات قانون شهایل نمیشه نه نه, نه. از به خدمتون اون بسیار موردیه م. یعنی باز بنده بسیار شبایت کنم ضرری از این مصببت ببینم ولی بسیار کلی اون نظارتی که شبایت در قوانیم داره فقط انسال بده کرده به قوانیم شهایل مردش در حالی که خیلی از قوانین جای دیگه است. اصلاً دیگه برای خیلی از <تصفح> غوانی دیگه واقعاً اصلا باید جان مردم بر مال مردم تسلط کامل داره ولی هیچ مین نظارتی برای اینا صورت نمیگیره. بعد خود فرایندی که اتفاق میفته بر برفرد مجلس اومد من قوانین و قانون تصیب کرد. خب میاد توی شرنگ احوان. شرنگ احوان هم یک مبنای روشن و واضحی برای همین انتبا تصویق با موازین شر یا مخالفت با مقایرت نداره یه جایی میبینه که نظر مرخوب امام اون نظر مشهور میگه خلاب شر. یه جایی میبینه که نظر رهبری میگه خلاب شر. یه جایی توی یه قانون یه چیز خلاب شر میدونه همون چیز رو بعدی تو همون قانون خلاب شر نمیدونه یعنی ما از این جهت هم یک ملاق معین و مشخصی نداری که وقتی از این مقایرت شرد که یعنی چی؟ مطابقه با معبازی چی؟ مقایی با معبازی این, این چی؟ نظر فقهاشو نگرمان ملاکه، نظر امام ملاکه، نظر رهبری ملاکه، نظر مشهور فقه ها ملاکه و شما هموز این ذرفیت ها رو ما حتی در این حد هم تعریف نکردیم و این است که ما تو حوزه ترمین باش مواجه میشیم و در بحث پدید اصول و مباحثی که ناظر به پدیدها اجتماعی هست یا نه هم وایسی که بالاخره ما الان دیگه واسه اینکه بجاتیام دکتر به درس اش اشاره کردم بالاخره ما نظامی هستیم که نظام کمالگرا هستیم و فرضمون هست میگم احکام شریعت و احکام اسلام رو در بسرجامیه پیاده بکنیم و نقد بکنیم. و یکی این بالاخره این احکام شرع و احکام اسلام که میگی این یعنی چی؟ بالاخره ما که یک حکم واحد و نسل واحد و فتوای واحد که در حوزه مباحث فقهی ندوریم که فتوای رو شما در حوزه تدوین چیه؟ حالا فتوای خودش فقهای شورای نگهبان ظاهرا هیچ مشخصی نیست می‌دونی که مثلا بعضی جا گفتن من این مقاله نوشتم تحت عنوان تحلیلی بر شما نگهبان بر اشکالات قانون مجلس اسلامی بعضی جا جواب گفتن که مثلا نظر خودمون، برخی جا گفتن نظر امام، برخی جا گفتن آقا تا نظر تحریف دوست بشن، ما حقیب یعنی از یه پاردوست با آیه آنومی و یه نظم در حوزه تقنیم با یک بی نظمی مفرد مبادی هستیم که این بینه از این باعث میشه که ما عطا دیگه فرصت نکنیم بیام به دقدرگاه های دکتر توجه بکنیم که بیام این پدیدار اجتماعی فهم بکنیم چون خیلی به هم پاسه مهم بی دکتر مطره فهم بکنیم الان همین بعضی فرشمان رج خب رج بالاخرده طبق اجماع فقاهای فریقه انحالا غیر از خوارش معتقدن معتقدم در شریعت نیست و برقی از امامی هم که خواهر خیره معتقدم رجم مشروع شرعی نداره تقریبا چیزی غریب به اجماعه هست خب الان رجم را ما میتونیم تو جامعه اسلامی اجرا بکنیم؟ نمیتونیم اجرا بکنیم این احکام کتاب مسالح و مفاسد هست این مسالح و مفاسد چقدر میتونه در حوزه از به خدمتون تقنیم و قرار بگیره؟ ما وقتی که همون بحث آنو نوی مطرح دو بود اون بحث بود که بدخل ما علیه ارتداد چی باید کنیم ارتداد یا جرمه بشه بیاد تو قوانیم نیاد بحث صحر ساحل مصطبین یختر الان سر شما با یه پدید اجتماعی چیوی تحدیل میکنه آیا این الان مشکل جامعه ما هست نیست باید تو قوانیم بیاد نیاد خب در لایه ارسالی و قضایی اگر دستان ملاحظه فرمایم اونجا هم بحث سحر جرم انگاری شده بود. هم بحث ارتداد جرم انگاری شده بود. هم بحث رجم جرم شده بود در جلسه‌ای که کمیسیون حضور مجلس با آقای شاه‌ریزشون حضور بودیم کمیسیون گفت آقا من نظرم این است که ارتداد تو قوانین ما نیاد بحث مثلا رجم مثلا تو قوانین ما نیاد رجم در این مرحله کلا تو قوانین لایحه آموزش نبرده کلا حذف شده بود بحث ارتداد حذف شد دراش ماده 220 پیشنهاد دادن و بعدا دوباره شوناوگان یه جور به این اشاره کرد که رجم آورده بشه طبق ماده 225 تنظیم شد یعنی اول ماده بر اساس احکام اولیه رجم تنظیم شد که مجازات زن رجم است بعد اومدان بر اساس احکام ثانویه بحث رجم را انجام کردن که اگر امکان اجرای رجم وجود نداشته باشه با از خدمتون درخواست دادگاه صادر کننده رأی و موافقت رئیس و اگر اون زنای محسن با بیانه اثباه شده باشه مجازات تبدیل به قتل میشه اگر در غیر این صورت یعنی اگر با اقرار و علم و قاضی به سلام شده باشه تبدیل میشه به سرزبه شرلا خب. اینا همون نگاهی است که دیان دوکر میفهمون که بلخیر پریده های اجتماعی فهم پریده های اجتماعی و ضرورت های اجتماعی بلخیر در تقنین موثر هست و اثرگزاریه یعنی ما نمیتونیم در یک فضای ذهنی اقدام به تدوین روانی و مقرار بکنیم لزومن باید پیده اجتماعی رو درست فهم بکنیم ضرورت ها رو درست فهم بکنیم و مفاسد رو درست فهم بکنیم بدون که وقتی مادی رو تنظیم می‌کنیم آثار و طبعات اون چیه؟ آیا اصلا مطالعه می‌کنیم؟ من یادم از اجلیسه رو با داستتان کلیکشورم اون موقع آی حضر خدمتون اسم یادم رفت داشتیم ایش که آجا شما که بداخلی داستان یکی از وظافه اصلیش به اصلا مبارزه با گرائم و مجازات ها گرائم بداخلی مسجد اصلیست لا به تيريش بلخدا بود داسټانی کولی کيشوره تاسو نه شما نگاه میکنین که این قانون کی تاثیر میشه آیا این جرمزا هست جرمزا نیست اصلا خودش اثرش چیه مثبت منفی گفت مثلا قبول فرضت دارید این کارو انجام بدید ما وقتی که قانون 70 مون تاثیر قانون وجود 70 تاثیر شد 23 سال این قانون آزمایشی بود تا زړه د داینی بشه الان مثلا محمدین بحث قانون الان این آنومی که داریم و حد به حد اطالی به درستشار رو کردید بی خیلی عجیبه از یه طرف می آن ها رو شدید افسایش می از یه طرف میان مثلا قانون کاهش مجازت حبس رو تصفیب می که به یک باره مجازت حبس رو کاهش می خیلی از جراحیم غیر قابل گذشت می شه مثلا قابل مستقیم رو از دست میده بدون شکایت اصلا قابل ترقیب دیگه نداره اصل باید میکنیم که آقا این قانون با این ویژگی که به تلخیص شد، آب واسه اجتماعی چی بوده؟ آمار جرایم بیشتر شده یا آمار جرایم کمتر شده؟ و این حالتون چون کرد این دکتر بیشتر اومدنی بود من بیشتر با روکرد کیفری متو بحث بکنم در واقع شد داره دکتر هست در حقوق کیفری و مجداتی که ما با این بی‌نظمی در کیفری مواجه هستیم ما تئوری خودمون رو در خصوص موجز 7 نمیدونیم این در واقع یک نوع قوانین ما موجز ما هم تو حوزه هوکیفیری هم در حوزه مدنی تابع احساسات یه جذبی توی کشور اتفاق می افتد میون بر اساس اون جذبی که تو کشور اتفاق افتاد یه قانون تایید میکنیم حالا یه موقع افزایش جمعیت یه موقع کاهش جمعیت یه موقع مجازات اعدام هست یه موقع کاهش مجرای اعدام هست یه موقع تشدید حبس یه اساس تو کشور اتفاق میوفته میگه آو پدرشون رو بریم مجازات اعدام فقط اعدام دوت تا اعدام صورت میگیره آقا چه ورزی بر اعدام کردید فرگشتیم به حل این بخاطر که ما واقعا به یک نظام متفکی در حوزه تنظیم نداریم اصلا الگویی برای تنظیم نداریم هم در اصول با چالش‌های متعدد مواجه هستیم هم در راهکارها با چالش‌های متعدد مواجه هستیم هم در اجرا با چالش‌های متعدد مواجه هستیم لذا مثلا توهای بعض حوزه جرم انگاری یه موقع دوها دامنه جرم انگاری انقدر توسعه میدین که هر کس حجاب شرعی نداشته باشد مجازات میشه وقتی حجاب شرعی نداشته باشه این یکم طبیعه دارو بموشن معلوم بشه دیگه نه از حجاب شرعی خارج شده دیگه باید مجازات بشه می اصلا میتونم همچین کاری انجام بدین خب امکان نداره گفتم تا تو اینجای امکان نداره بعد نداره یکی رو رو یکی رو, نمی گیریم. یکی رو میکنیم یکی رو میکنیم همین برخورده های متناقض و سلیقی موجب میشه که الان در اصل بحث پوشش با چالش مواجه میشه اصل بیانات جواب دکتر رو من با امده مباحثش موافق هم در برخی از مسادیق هم ممکنه ما بیدیمون بحث کمالگرایی رو تو برخی از مباحث مثلا بحث حقوق کیفری این دوری هسته خود حقوق جزا جزایی خودش همان گاشه غوان جزایی قوانین نیست که برای حمایت از ارزش‌های های اون جامعه وصل میشه. اما مثلا بعد از قوانین مربوط به مبوط شکلی مثل مثلا از عختهجارت یا اصلا بحث فرض کن مثلا کیفری مدنین در حوزه‌هایی هایی که مربوط به رسه دیگه باشه ابلاغ چ باشه چیت نباشه. فواصل ابلاغ چی باشه این ها به صورت اون بحث ارزشمندی و خمالگرایی شاید در اونجا مطرح نباشه و بیشتر اون کار, کار بردی بودن و روش هایی که بالا هم متزمن حقوق متهم باشه هم متزمن حقوق شاکی باشه و هم متزمن حقوق اجتماع باشه باید در کنار هم دیده باشه و هیچ اشکال هم نداره ما واقعا نگه از تجربه هایی که در کشور های دیگه حالا فرد نمی کنه غرب باشه شرم باشه همه مباحث حقوقی که مستقیما من در منابع فقهی نیامده خیلی از مسئل است هست جدید هست نیاز به استفاده از است تجربی دیگران داریم برخی از تجارب هم تجارب خوبی هستم ما یکی از مشکلات رو که در حقوق کریفه و مگزی ها صحبت کرده هم بخواهم من عراجز هم خطاب بکنم چون وقتم زیاد نداریم از تکمیل فرموشت بکنیم. از از آقا مستفاده بکنیم با ما باید از تجاربی رو داریم که یکی از مشکلات دیگاه دکتر ما داریم در بحث حقوق کیفه ما بالا بودن آمار زندانیان و حزینه زندان هست الان شاید ما برای یک زندانی روزانه فون سه هزار باید هزینه نگهداری یک زندانی در زندان. حالا مگه این 500 اعتمان به این زندانی بدیم یا خودت رو بیرون مرتقبی جرم نشون آبوید 500 تا هم بدیم شاید اصلا بهتر کار مدیریت بشه ما میبینیم که از این به حزینه های زندان رفته بالا از اون برخام دولت به مشکلات اقتصادی و کست بودو و فلا فلا موجه میشه راهکار چی چی بار کنیم بیان پس بیان یک قانون بشن. یا به باها های مختلف در غذا های مختلف یا این م... خب این زندانی وقتی که به این شاید می میاد بیرون بازندگی نداره میاد بیرون و خیلی از این جرراه میگاه دکتر اتفاق مفته. همین زندانی است که با همین وضعیت اومده بیرون یا دو یا از به خدمت و با این سیستم بیرون دوباره مرترکطور میشه و دوباره باید برگرده به زندان. مگه اینو اون مشکل حل کنیم اومیدین صورت مساله رو پاک کردیم خب در نظام حقوقی فرانسه چیکار کرده جالب آقا تمام مواردی که مجازات حبس داره در کنارش جزای نقدی سنگین داره هر چقدر حفظ افزایش حبس پیدا میکنه جزای نقدیش هم افسوسش پیدا میکنه یعنی در واقع آموزه فرانسه اومده موجود به هزینه زندانی رو از طریق جزای نقدی از خود زندانیان میگیره. ما مدین این هزینه رو کلان گذاشتیم رو اعثی بیت المال، رو مردم، رو بودجه و میکشوه و وقتی این بودجه رو گذاشتیم اونجا دیگه میبینیم که کشش نداریم اقتصاد جواب نمیده، بودجه جواب نمیده، مجبور میشیم باز از یک راهکارو استفاده کنیم که باز خودش اون یک آسیب بیشتری رو بر نظام فری ما ایجاد میکنه. بنابراین ما در خصوص تقنین دو تا بحث رو باید در کنار هم داشته باشیم. یه بحث همون اصولی است که باید ناظر باشه حالا برکت از اون اصول اصولی است اصول که یه آموزش فهم فهمونم خیلی از اصول دیگه هم هست روانی ما باید جامع باشه شفاف باشه مبهم نباشه الان یکی از مشکلاتی که مطرح شده و کیفیت اولی داریم در روانیم مبهم بودن روانی هر کسی یک برداشتن از این قانون میکنه یکی از همین ماده استفاده میکنه ده سال زندان میده یک میگه اوه این ماده که راحتیم بس نداره لذا دادگاه میاد برای یک متهم مثلا در بحث حوزه هجاب میاد 24 سال زندان میده سر صدا داد میاد آقا این چه سیستمیه این چه نظامیه این چه دینیه برای برداشتن یک هجاب 24 سال زندان داد آقا زنامی که از زنا تزده الله بود بعد این همه برای نظام برای دین تبلیغ موج جاید میشه میرید تو دیوان حاله کشور کلش تزمش نصمشه و میگن آقای برمیگرده آها این چجوری؟ یعنی ما هم در بحث تقدیم مشکل داریم هم در بحث تفسیر که بخشش برمیگردی بخش تو هم موضوع تقنی یعنی وقتی قواهین مبهم باشه این نشکاله دیار میشه حتی اگر مبهم نباشه وقتی جلوی تفاثیر سلیقی گرفته نشیم اون آغازی در مقام تفسیر آزاد هر برداشت رو میتونید داشته باشه خب میگه رو خب من برداشم برداشت میمیر دیگه اگه اینجوری برداشت میکنید جلوه میده میگم اونجوری برداشت میکنه حالا خیلی از مسائل ما اینطور مشکلات جدی داریم تو مثلا مثلا مسادیقی بوده تو کشور دادگاه بعدی اومده ارتداد دونسته حکم به اعدام داده خب یک موجی رو تو کشور ایجاد شده یک سر و صدا یار جنجال بخیر مگه سرمایه می ما آو مثال مثال جرب میشه ولی یه دفعه میره هواپرد میشه سرمایه اجتماعی حکومت و نظام ذره ذره جمع شده ولی یه باری میدونی که ما داریم سرمایه اجتماعی روی همین سلایقی که برای از توضع ترمیم اتفاق میفته از دست میدیم یه دادگاه میاد حکل اعدام میده توی ارتداد یک موجی اجاید میشه و بعد دوباره همون رای نرد دوباره موجی دیگی میشه در حاله که بالاخره ما از یک شفافیت نه در حوض تقمیم مواجه هستین این راهکارهای مناسب تقمیم رو مواجه هستین که درست نیست ظرفیت قانونگذاری ما بسیار در ضعیف و بیماری هست. حتما نیاز به اصلاح و تقویت داره باست ام اصول هم دکتر فرمودن. بودن علا برای این اصول, اصول دیگری هم داریم که حتما باید در حوزه تقنیم رعایت بشه و اگر رعایت نشه هیچ وقت ما نمیتونیم به اون الگوی تمدنی که مورد نظر ما هست برسیم و خیلی از این اصول تا وقت عملیاتی و پاگی وارد جز یاد نشه هیچ نتیجه نمیشه ما هم یه رو از کنم ما حتما تو دوستان در جریان هستیم که همین سالهاش که درگیر سند توسعه خب چی شد این سند به جای رسی سنور داد چقدر بوش وقت داشتن خود هرزت آقا چقدر بوش اصراع کرد های خیلی قوید بود جه و سازمان ها افراد خیلی قوی من یه نقدی تو همین سند باشه چون بچه ما هم تون سند بدون بچه پریشگاه خدا جای رشاد میرمویسی دیگران در و از یه عرصه کردم اون آقا مگه ممکن شما با یه سنت دولد که هم دامداریتون توضیح بده، هم هنریتون توضیح بده، هم کشاورزیتون توضیح بده، هم نو اصلا هم فیزیک دست ممکنه مگه یکی دانیم تا چندبار بکنیم که من این دی سنت که ما هم کل فضای کشور رو از سه تا سه تو همه حوزه رو هم توضیح بده و بیشتر مه بهتر چالش بیام چالش رو در حوضهای مختلف شناسایی کنیم و اصلاح اون کنیم به بحث رو پیش ببریم باید خیلی استفاده کردم واقعا استفاده کردم حتی من خودم واقعا توی این حوزه جاهل بودم بیشتر کسفه بود محضر خدمت های که ها بند و دکتور خیلی خوبی هست ولی نباید متوقع فرهنی باشیم نمیفرد این یه پله کچیک هست موجود تقریباً رو دارایم مثلا 100 اولگو و, و پایی بخوام برش بشماریم این یکی ouais از این پاییایی که باید بتوانید بکنیم این هست و این پایه به تنهایی هم نمیتونیم ما رو مستقنی بکنیم از سایر حوزایی که در این زمینه مورد نیاز هست. ما هست. عرض مطلب کن با صلوات بر محمد الله. الله الله بایان شیبا و جامعه خوادشمان تکنیک کردن فضای بحث و خانون از جایی داشتن کلی هشاره داشتم بگوی که وجود بوجود خانون هست اصول جوامعه متمدن هستش و با این روی کرده تمدنه اگر ما بخواییم به این فضا برسیم به این سمت بخواییم بریم باید یک آسپ شماسی جدی نازم فضای فضایی و اصول مختلف روی کرده ها شکلیه اولین قدم هم در حوزه تقنین تمدانی به عوارتی بود از آسیبشناسی اشاره داشتن که باید این روی کردی برای این یعنی برای آسیبشناسی اشاره داشتن که در هم ترمه وست های اصول و هم در راکه ها بعد آسیبشناسی های اتفاق دیفته و یکی از اشکالات دیگر می اشاره داشتن به عدم اشناخت سهی از های موجود در جامعه کشور که با سپایی اصیح که قانون بزار رایت نمی کنه و باعث می شه پیامتویی باشه و به این اشاره داشتن که در وضع قواندی که از کارهایی که مباید بکنیم امتداد اجتماعی قانون و الزامات و آثار و طبعات اجتماعی قانون باید اصلی قانون بزار و برایش تنزیده بشه و برسی بشه یکی نکات دیگه هم که اشاره داشتن که با مس... صورت اشار به صورت مستعاقی اشاره تبقیه با مجزات اسلامی سال 70 به سال 92 و به صورت مستعاقی به این اشاره که آیا اصلا خود نمایندگان مجزیس و فضای مجزیس این ظرفیت فهم نسبت به رو داره میتواند موضوع رو درد کند همون سوال مستعاقی که اشاره داشتید متاسفانه متاسفانه این وجود داره چون همه ها به یه نه با قدران این مزیز ساعت بودیم از و یه مسئله دیگه هم که نبود فترهای مئیار در وحث اون که مدره و چه باشه و اشاره به ظرف های در حوزه قانونی که از دیگه تحصیل و احساساتی که تواند به حوضه قانون بزاری ما تحصیل بزاره این حاصل و اشکالاتی که دیگه بود یه نکته یا نظر بیان شما اشاره داشتن از این باب که ما میتوانیم به ظرفیت های تشورهایی دیگه از بابت تجربه بحره بگیریم و با مانه بلگو و مختلف مردوهنسی و احساسی قرار بدیم و به صورت کلی در فضای تقنی این رو را و بربزن در فضای تفسیر تقنی در این حضور که اشاره چند در فضای تفسیر نیاز هم اصلاح هست و هم تقنی هست و علاقه این اصول یعنی پیش شما برشمار بیتصایی اصول هم نیاز باید هستید که به این فضای بخش میشین برای کردیم بهتر استحاده بندیم این توازه شد. همه یه آیه که احمد بیادبی و داره و سمه این دوتا مجتمل شما از باید اصطاده کنم براظر توی فضای ترمی از مشکلات امدهی که وجود داره عدن و فهم صحیح از ظرفی اتراز آی که آیه شده داشتن اما باشتن اما مستاقن چه در مکنز تقییب چه در جانبیگی نو پایید برد بارتی با موزاری در فضای ترمینی داره بحث یکم دلن ترده قانونگوزهایی که میشینه در فضای ترمینی داره بحث میکنه مثلا اگه همین بحثی که اخیلن سندی توسعه که دوباره کارش جد و سنده هفته باید هم دوستان بودن تو فضای حوضه بهش کار کرده بودن که آقا ما باید مثلا ظرفیت تولید دامو به اینجا بهت مثلا مختلفی دوستان. نمی گفتم اصلا گفتم خیلی از این فضاها با ظرففیتی که در اونجا تبیدادی که دیده شده و بحثی که اونجا شده اصلا ضرف کشورمون نمیتونه نمیتونونه به اونجا برسه بیشتر آرمانی است. اصلا نگاه آرمانی های دکتتر می بینید ما مثلا در بحث نهادهای دا که که از مضلات العلان کشور میدانیم کشور ما اقلیمن اقلیم خشکه میخواید چیکار کنیم بعد حی بیاید در صورتی که دوستان راهکار داده بودند 20 تا راهکار عملیاتی دوستان ما داده بودند بست خوزه، بست همت خوزه دو بستان بس وقتی که این نفت بودند حالا جهل زبت هم داره میشه اون خوزه میتونه یور حفایی بزنه دو یعنی مباحثی که اونجا اشاره شده بود دلیل چی بود می‌گو ما توی مزموعی کار اساسی کرده بودیم دو سه سال می دونستیم فضایتی ها، یک کار ویشه ای کرده بودیم باید با متوقع الان تو لوایه مجلس مشکلاتی مزید فقط لایه پشت لایه تسلیم میشه. شود انباشت قوانین که شده یک از هست تصدیقید فرما این یک بس من تو اون بحث که آیه دکتر اشاره داشتن ناظر به واقعیت اجتماعی این یه م... مسئله است الان ببینید ما الان تو جامعه الان ما تو بیان از آقاش ما میریید نگاه این مردم سپاررن شکوراندی مردم عالی هم فلانن تعریف تو اخیلا به او تعریف کرده بعد این وقای دوباره از داغه از این مردم. بعد می تو چفته اداشتاعچه در دل حوزه باشه که آقای مردم بعد دست رفتن اینا دیگه فلانشون خواهیم اون زاویه و منطقه نگاه کردن ها متفاوته. هم تو ادبیت آقا به این ایمانی مردم ایران میگم اسمشه اون بیانی هم که نازا ساختار رو بند گذاشتم خدمت آقای گفتم اون خوییت ایمانی است که خیلی از کارها داره میبره جلو یعنی شما تو مسئله ظرفه فرایندی فرآیندی دولت اسلامی آقا میگیم یه هر تو مردم اومدن پا کار دولت اون مجبورن پشتشون بدن تو همین قضیه مباصد داشتیم دیگه چون مردم اومدن پا کار نواهای حاکمیتی پوشپندشون اومدن پا کار میخواهم عرض کنم این خوییت ایمانی اون وضع هم واقعیت اجتماعی که شما رفید به وضع طبیعی حافظ من تو اون واقعیت اجتماعی که شما اشاره داشتیم. متاسفانه تو این ظرفیت های ما این خوبیت ایمانی جامعه مقفوله و اصلا دیده نمیشه بهعبیمیم. که جا داره به عنوان یک نسالی کلان اصلاً خود جامعه به با واقعیت اجتماعی و نگاه پوزیتیویسی به نگاه میشه اصلا دواره اصلا واقعیت بینید چون واقعیت اجتماعی موبینی تو همه وضعی مشروطه مردم به طبعی از مرجعیت دارن میان کفه میگم تو قضیه جمهوری اسلام ایران به طبعی از مرجعیت دارن مردم میان کافه میدو و توهای مختلف مثلا همین تو های اخیرم مردم به خاطر اون رگ و غیرت دینی که دارن میان کافه میدو تو کجای دنیا شما ویدا میکنید با این همه فشارهای اقتصادی مالی مثلا مختار مردم 22 و من اینجور باشن بیان کافه میدون خب این نشون میده دستگاه محاسباتی ما با اون چیزی که در واقع حسش با اون چیزی که ما فکر متفاوته بعد ثمرش چی میشه میگیم. مثلا مردم پولیدن مردم خاند. بعد میم تو نه این مردم من این مردم سپارن این مردم شکرون شما دارید احتیاط و وقتی سمحت می آه. اون کارگزار ما یه چیزی میکنه به خاطری میخواد چرا اون تغییر ساختار اجتماعی شکل بگیره تو هم مطلوب برسون انصخای میکنند یادبی بنده‌ها استاد ببخشید من, میکنم. سمار... من, سمار... میکنم سمار... میکنم سمار... من که از ارشدان همین که مدل تحویل که ما کارخونه کردید که این هر روز باید قانون برش اگر یه روز مثلا میگه مدرس دستور نداره دا آ آه مدرس کار نداره از سفت سال ما داریم قانون طولت میکنیم قانون ناصرش معلوم نیست، منصوبش معلوم نیست، تنریشودش معلوم, معلوم نیست آمش معلوم نیست، خاصش معلوم، شما یه حقود ها میتونید پیدا کنید که به همه این قوانینی ای که دوری کشور الان قانون حاکم و جاری هست اشراف داشته باشه هیچ از نیست نه خود مسئولی دستم که ایچی؟ بعد هم و یه از به خود گفت توی رفتم بعد با آجوز آقا به این قانون این بنده خدا بلاخره حکمش این میشه گفتم که همچه قانونی این داریم گفتم آره گفتم نه من ندارم از این جانی ما نره گفتم من قانون خریدم و آدم بهش دادن گذارم شما تفیر حالا توی این وضعیت نور رو همه حالا من نازه به این نکته آخر شما این اخیرا بحث فضای هوش مسلم این که مطرح شده این ها توی بحث آینده پجویی میگن که روبات قاضی خیلی کارامادتره حتی اون احساسات و چیزه دخالت نمیده و اطلاعات که دو دلت نقطه همه من خیلی واقعا استفاده کردم از فرماشات حضرت عالی ویلیزای عزیز این جلسه واقعا جلسه مفیدی برای من بود خدمت شما هر شما خب اختزا جلسه مایی بود که ناظر به مسئله جلو بریم یعنی بحث تمدن اسلامی و اینکه قانونگذاری در افق تمدن اسلامی رو مقداری تبیین بکنیم حالا محصای آسیب شناسی سرچای خودش به شدت مورد توجه هستش و اون سوالی رو که من باید طرح بکنم و خودمم روش کار بکنم اینا قانون گذار و داره قانون گذاری میکنه تو هر حوزه ناظر به هر واقعیت اجتماعی مبتنی بر چه نظریه‌ای داره قانون گذاری؟ اینو به من جواب بده مبتنی بر چه سیاست تحریری رفتین مثلا تو حوزه حجاب تو حوزه اینا رو داشته باش نه این آنومی که شما فرمایش می‌کنید وجود داره اینا تو افق تمدنی این اشکالات اشکالات مبنایی باید حل بشه این مشکلات واسه هم که از سالی فراموش کردید بعضی جاها شاید بشه براش راه اندای خصوصا تو دیگه ما وارد گام دوم انقلاب شدیم مجلس ما واقعا تکانی بخوره همه اشراف داریم میدونیم که آقا این نماینده مجلس بنده خدا چقدر سرش شلوغه اون مسئول کشوری چقدر سرش شلوغه چون ما خودمون واسه اون تعامل داریم ارتباط داریم میبینیم که اصلا وقتی حرف میزنید ذهن جای دیگه است. اما خب این مسئله فقط مسئله نظام قانون قانونگزاری ما که نیست شما ببینید تو قرم بالاخره بلخلی مدیریت کرده حالا ما این نکته رو بگم رفع اتمامم بکنم این عرایزی که من کردم تو بحثا هم گفتم ما نه. یه تعامل منضبط میخوایم من تمام حرف همینه بلا اخذ منذبت، اخذ ناظر به سیری اغلا اینا که دیگه بحثای بدیهیه برای ما یعنی همین قانون خانواد هم که همه مثلا زن در سال 91 جنبهای مثبتی داره اینا که قابل چیزی هستن ولی میخوام بگم اون نیمه خالی دیوان رو هم بعدش بهش توجه بکنیم که تو نگاه آرمانی و تمدنی ما بعد اونها رو حل مکنیم. حالا برای این سرشلوقی مجلس چیکار کنه آقا ما که نمیتون فقها رو هم برمیم تو مجلس خب رای بشون نمیدن. یعنی به قول شما یه سری فضای داخل مجلس وجود داره به سمت جایی که اصلا تشویق بیشتری وجود داره امکانات و اعتبارات بیشتری وجود داره میرن خب به نظر میرسه که حالا بعد مطالعه کرد ولی اون چیزی که ما یه مقداری رسیدیم اینه که غرب تو فضای تصمیم سازی یه ساختار تولید کرده فقط میگین آقا ما یه مؤسساتی داریم یه اندیشکده هایی داریم اصلا کارشون همینه اندیشکده بعد بیاد در خدمت مجلس کمیسیون غذایی اندیش یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس باید کار اندیشکدایی بکنه. حالا کار اندیشکدایی یعنی یعنی وقتی ما تو این تئوری که میگیم تو نگاه مطلوب باید هم مساله شرعی رو ببینن هم مساله عقلی رو ببینن هم مساله عرفی رو ببینن هم مساله مسائل اخلاقی رو ببینه. بابا این خیلی زو ابعاد شد. این گذاری خیلی ذو ابعاد شد. بله. نه مجلس ما نمیتونه، صحیح. اما یه راهکاری داره، بله راهکار کار اینه که آقا حالا این چیزی که فعلا به عقل ما میرسه میشه روش کار کرد و تجربه دیگر کار کرد این ایده رو بگیریم روش کار بکنیم قرار نیست نماینده مجلس خودش فقیه باشه قرار نیست نماینده مجلس خودش نمیدونم حقوقدان باشه ولی یه کسی باشه که در مقام تصمیم گیری به نظر کارشناسی تصمیم سازش توجه بود. این کارشناس میتونه فقیه باشه این کارشناس میتونه یک مدیر اجرایی باشه. باشه این کارشناس یک حقوقدان باشه این تو میزهای اندیشه‌ورزی که اینقدر وارد توجه است آقا همین بعد اتفاقیه یعنی میزهای اندیشه‌ورزی باشه حالا یه زمانی که من با مرکز تحقیقات مجلس کار می‌کردم این داشتن تلاش می‌کردن که این میزها را بیفته یعنی تو همین حمیب... آره جلواز... آره من دیگه خل... الان آره... چند سال دیگه ارتباط ندارم مرکز ابوالمهندس هم متأسفانه میه هم یعنی چرا نماینده مجلس بعد ملل بترسه که الان قانون نداره بس کنه بابا شما برو تو میزا بشین برو ارتباط بگیر با کارشناسان قانون باید نگاه کارشناسی بهش بخوره جدی بخوره از زوایه مختلف بخوره حالا من به نظر به عنوان یه راهکار اینه یعنی اینکه که فقط هم به یک نظر کارشناسی خاصی محدود نشه به یه جریان خاصی محدود این همه زوایه که برای قانون مطلوب گفتیم باید درش نگاه کارشناسی لهایه مطلیش کنسان همون کارشناس میدن ندارم کشید بودی کنسی یا نه مجلسون نه کارشناس من اجازه صحبت نمیدن. کارشناس <تصفح> تو... این... هم فکر ندارد باید من من من این که اگر مدیران ما اگر اینطور بشه که مجلس تبدیل با توی مسئولیت با توی ولی نظر کارشناسی بگی بعد اصلاحانجام. این مشکلاتی که داشت چیه؟ باید روند تصدیق شد شورای جوان ایراد گرفت برگردوند به مجلس مجلس استلاغ بود مجلس میگه که از کارشناسان کمک بگیره خودش یه استلاغ کنه ابرو خوب کنیم میگن چی کول میکنه یه جوری خوب میکنه چهار جوری دیگه خراب میکنه بخودن اینکه هم عثمان نفع یعنی به این درد نرسیدیم که حالا دروسی که من نماینده مجلسم ولی متخصص این اگر این را دارن متخصص به ایراده اراده منتقل کنم راه را رو را از همون بخوام اون رقیب ما در عرصه تمدنی که الان داره میتازونه اینا براش حل شده یعنی ببینید این م... یه دفعه شما بینید که جریانات وحشتناکی علیه کشور مثلا دارن پمپاج میکنن و عمل میکنن خب این خروجی اندیشکده های هایه یه تین های اینا اون خروجی میاد تبدیل میشه به یه هجمی رسانه ای و حتی ببینید چه تعدادی از مسئولین بلند پای کشوره غربی توی همین قضیه اومدن پایی کار اینا کی ها بود پایی کار اون مرکز اندیشگده. تصمیم ساز اون... بله این ضعف ضعف جدی توی یعنی مسئولی ما تو چه نه غیر تقنیلی. آقا این شجاعت رو بذار کنار این که من خودم تو این فضای پیچیده اجتماعی فعلی میخوام به یک تصمیم برسم بذار کنار شما باید مراجعه کنی به نظر کارشناسی و بعد با این نگاهی که حالا تو این نگاهی تصمیم سازی وجود داره حالا من واقعا استفاده کردم خیلی دیگه بعد فرماشد تصمیم خدا اگر اجازه بدید من خط می کنم صلاب. بر محمد و آل محمد الله محمد, بلا بلا محمد. بلا تشکر می از سروران عزیز من حضوروران عزیزان که قبول زحمت کردن این بصیرت خدمت شما از جناب دکتر چردان در لیست هستید. خب بی نشیم با جامعه تلاش روشن یکی از دربار هستی خود شما. و تقدیرهایی که میتونه تا پیش بر اهداف نظام مؤثره باشه و ارائه دادن که ان شاء بتونیم این نگاه رو و در جامعه خود فرما کنیم. تشکر می‌کنم از استاد عزیز جناب آقای دکتر اسلام هستم دکتر فتحی که قبل زحمت کردن جهت ایراد و اصلا با دیدگاه ناغدانه و مطالب و ممکاتی که کارآمد آمد و نظر فضای حاضر اشار داشتن تشکر میکنیم سه اولا بیشتر من بیشترزی وقت احضان نگیرم هم که به صورت فضای مزازی توفیق بوده در خدمت شما باشیم تشکر می‌کنم که همراهی کردن و یک صلواتی جنازونو